در سوره مبارکه زخرف یه موضوع دیگری هست یه اشکال دیگری جواب داده بیش هم در همی موضوع. همین موضوع همه این ها زنجیروار با هم دیگه چیند مرتبطند اشکال اینه که ما میپذیریم غیر خدا معبود نیستند نباید از اونها حاجت بخوایم نباید از اونها کمک بخوایم اما ما که اونها رو میخانیم به خاطر اینکه انتظار داریم امید داریم سفارش ما را پیش خدا بکنند شفاعت برای ما بکنند ما که اونها رو فریاد میزنیم فریاد اونها برای ما وسیله میشه فردا پیش خدا شفاعت میکنه خدای اینها ما رو فریاد زدند لذا اینها را ببخش اینها را از عذاب نجات بده برای اینها سخت نگیر اینها را به های دنیا گرفتار نگردان بس ما فقط صدا می‌زنیم به دلیل چی هست به دلیل سفارش و شفاعت هست خداوند در این سوره جواب میده ولا یملک الذین يدعون من دونه الشفاعه این شفاعتی که شما اعتقاد دارید این سفارشی که شما باور دارید اونها اگه شما اونها را فریاد میزنید اونها مالک این شفاعت نیستند مالک این سفارش نمیتونن سفارش بکنه اونها قدرت و یارا این سفارش را ندارند خلاصه این سوره هم ابتدای سوره تمهید هم با ترغیب هست سه تا دلیل عقلی تو این سوره میت که دو تاشون اعترافی هستند على سبیل اعتراف من الخص و یک دلیل عقلی ماث هست چهار تا دلیل نقلی از سابقین در این سوره میآید سه تا تفصیلی هستی که اجمالی هست از این چهارتا، تا و یک دلیل و در آخر سوره همین ادعای سوره مدعای سوره هست و ازالیه شبه هست این سوره هم نامش سوره زخرف است به دلیل چی به دلیل الکل کل باسم الجزء ذکر زخروف آمده گرچه زخروف اینجا بمانت طلا است اما همون جمعیخانین به چه عنوان ذکر زخروف آمده آغاز میشه با همون تمهید حامیم والکتاب المبین قسم به کتاب مبین سوگند به کتاب مبین یعنی این کتاب روشن گواه است شاهده که اننا جعلنا و قرآن ما این را قرآنی قرار دادیم به زبان عربی. ببین جواب قرآن هم کتاب مبین هست سوگند و دلیل هم کتاب مبین هست در اصطلاح منطق بین چی میگند دور میگویند که از نظر ا کنم اهل معقول این باطل است. چونکه شما میگید این کتاب خداست به چه دلیل؟ به دلیل این که این کتاب خداست یعنی استدلال گرفتم شی از خود شی این است این درست نیست چطور خدا عزواجل اینجا در دلیل کتاب را به عنوان دلیل ذکر کرده مدعا هم کتاب را ذکر کرده کتاب مبین ان ن جعلنا و ببینید این در واقع برای مسائل و اموری که مبهم و پوشیده باشد درست اون اشکال است اما بسیاری از مسائل هستند که اینقدر روشن اینقدر واضح که هیچ دلیلی وجود ندارد برای اثبات و روشنیش مگر خود این مگر خود این این مثل این میمانت که در فارسی هم ضرب المسلی هست در عربی هم هست که آفتاب آمد دلیل آفتاب آفتاب آمد دلیل آفتاب من به شما میگم که آفتاب تلو کرد خورشید تلو کرد شما میگم به چه دلیل؟ دلیل چیه؟ خود آفتاب را نگاه کن دیگه دلیل روشن تری بخاری بس برای اثبات طلوع آفتاب از چی دلیل گرفتم؟ از خود آفتاب علامه اندلوسی در تفسیر بحر المحیط روی این سوگند والکتاب المبین می فرماید و هازا فیه تشريف للقرآن در این سوگند شرف خود قرآن هست و ترفیع بکونه لده علی على جميع الكتب پیش خدا این کتاب بر همه کتب برترست و انه في ام الكتاب لدینا لعلي حکیم در ادامه می فرماید بر همه کتب برترست و الى یعنی خدا در واقع شرف قرآن را بیان کرده چون برای اثبات قرآن خود قرآن را ورده دیگه چیزی از این تر وجود نداره اینجا شاوالی الله رحمه الله که ترجمه بر قرآن نوشته به زبان فارسی اسم ترجمه شس فتح الرحمن ببینید چی نوشته می فرماید مترجم گوید قسم خوردن به چیزی برای اثبات آن چیز به یک چیزی قسم میخوری، خب می چه چی چیزی را ثابت کنی خود اون چیز را می ثابت کنی قسم به خودش برای اثبات خودش قسم خوردن به چیزی برای اثبات آن چیز یا لازم آن چیز کنایه است به آن که این چیز خود دلیل است کنایه است به این که این چیز خودش دلیل است مثلا شاعر فارسی به رسول الله سوگند یاد کرده برای زیبایی رسول الله دلیل گرفته چهره و رخسار زیبای خود رسول الله را میگه قسم به لب تو و زلف شبگون تو که تو محبوب یا تو معشوق روایی تو خیلی محبوبی خیلی معشوقی خیلی دوست داشتنی به چه دلیل به دلیل که خودت خودش دلیل است این لبهای زیبا و میگون تو زلفهای شبگون و سیاه تو چه زیبایی را جلوه می‌دهد پس قسم به خودش برای خودش چنانچه الله تعالی می فرماید لاکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمی خدا گواهی می‌دهد بما انزل الیک انزله بعلمه بعلمش میده. یعنی خود خداوند گواه است و خود خداوند اثبات می فرماید بس الله عز وجل از کتاب کتاب را شاهد می گیرد که ان جعلناه قرآن عربيا ما این کتاب را قران به زبان عربی قرار دادیم حکمت عربیتش چیه لعلكم تعقلون تا شما به آسانی بفهمید، شما به آسانی درک بکنید. اگر به زبان عجمی بود، به زبان عبری بود، به زبان آفریقایی بود، شما نمیفهمیدید. به زبان عربی است که درکش بکنید. و اینه فی امّ الكتاب لدينا لعلي حكيم و در اون امّ الكتاب یعنی در لوح محفوظ بقیه اوصاف کتاب، بقیه اوصاف قرآن. لدينا نزدما إن لدينا رتبتان ناس مراد ونجايجا يبيش ما دارت لعلي داراي منزلت بلند هاس حكيم مملوز هس حكمة هست كونجا الله ما هندلو سمي قفت لدينا لعلي يعني عاليا على وجوه الفساد حكيما أي حاكما على سائر الكتب وبعضي كتب وصف كتاب محكمة ما آمده محكم ان كتابي رمي قوين كتاب ان احكمت آياته كي قابل النسخ نيست بغيه كتابها محكم نيستند تورات منسوق شد انجيل منسوق شد بغيه كتابها منسوق شدن بقرآن قرآن محكم حست از جانب ذاته حكيم حست افنضربوا عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين اینجا خدای عز و جل آیا این قرآن را ما از شما برگردانیم اعراض کنیم از شما نظرب و عنکم عن ضربه را به معنی اعراض می کند صفحن هم به معنی اعراض هست مفعول مطلق نظربه هست من غیر لفظهی ای افن نعرزو عنکم اعراضن افن نظرب عنکم این معنی هست آیا ما برگردانیم از شما قرآن را ذکر یعنی قرآن را صفحاً برگرداندنی انکنتم قوم مصرفین لانکنتم بدلیل اینکه شما قوم متجاوز هستی قوم مشرکی هستی نه ببینید مشرکین انکار میکردن شرک میکردن حال خدای از و جل می فرمید بدلیل اعراض شما بدلیل شرک شما آیا ما قرآن را نازل نکنیم نه نا ما نازلش میکنیم و کم ارسلنا حال تخویف دنیوی شما اگر شرک میکنید به جزای عملتون میرسید چون و کم ارسلنا من نبیین فی الاولین چقدر از انبیار ما فرستادیم در امتای اولین انبیار که فرستادیم همان طوری که تو را مسخره میکنن ای من اون انبیار هم مسخره کردند و ما من نبی الا کانوا به یستهزئون پیش آنان هیچ نبی نمی آمد هیچ پیامبری نمی آمد الا کانو به مگر بودن نسبت به اون پیامبری استهزائ او اون مسخره میکردند وقتی که مسخره کردن ما چیکار کردیم نتیجه استهزاء خدا بیکار ننشست فاهلکنا اشد منهم بطشا ما هلاک کردیم اونهایی را که سختر بودند از اینها از نظر قوت خدا پروا نداشت که انسان های نیرومند و قوی و تنومندی بودند اونهایی که از این قریشی ها از این اهل مکه از نظر قدرت و قوت سختر بودند اونها را خدا هلاک کرد بهتر از اینها را خدا نابود کرد فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ منهم بَطْشَا سَخْتَرَ از این ها نظر قدرت وَمَضَى مثل الاولین گذشت حالت اولین یعنی حلاکت اونها و غارت و نابودی اونها گذشت تمام شد همه نابود شدند لذا خدا بیپرواه است کسانی که مسخره می کنند کسانی که استحضا می کنند کسانی که خورده می گیرند انها باید بتر سنت انجام اونها نتیجه اونها نتیجه پیشینیان خواهد بود ولا ان سالتهم این اولین دلیل عقلی هست اما اعترافی هست ببینید شما قبول دارید که خالق خدا هست ای مشرکان شما قبول دارید که آسمان را خدا آفریده زمین را خدا آفریده پس چرا شق دوم را قبول ندارید که خدا معبود هم باید فقط خدا باشد همون که خالق فقط خدا است معبود هم فقط خداست است ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض اگر از آنان سوال کنی بپرسی چه ذاتی آفرید آسمان ها و زمین را لا یقولن خلقونا العزیز العلیم حتما حتما آنها میگوین آفریده را آن ذاتی که هم غالب از هم داناست است هم قدرت دارد هم میدونه چطور خلق بکند برای خلق و پیدایش این دو صفت لازم یک معمار یک مهندس وقتی که بنای را درست میکند دو چیز لازم یکی اینکه واقعاً قدرت ساخت را داشته باشد و دوم اینکه علم داشته باشد چطور درست کنه این ساختمان من را لذا الله عزّ و جل هم این هر درد دارد اینکه زمین و آسمان را لیقولون العزیز الّذي جعل لكم الأرض این ادامه جواب مشرکان نیست جواب مشرکان همونه ادامه تنویر است تنویر خانم در اصطلاحات گاهی خدای عزّ چکار می فرماید خداوند سوال و جوابی می کند جواب را از اونها دریافت می فرماید بر اون جواب توضیحی میده وقتی که پاسخ را اونها قبول دارن توضیح را هم لا بد قبول دارن چاره ای ندارند امکان انکارش پیش پیچھے اونها نیست انکار نمیتونن بکنن لذا این را میگن تنویر برای اثبات مدعا این توضیح بیشتر و arz کنم روشنی بیشتر لذا وقتی که اونها گفتن که خدا خالق است الله میفرما کدوم خدا است الذي جعل لكم الارض مهدا همان الله یک زمین را برای شما مهدی آفرید مهد به معنی محل آرامش ببینید اون گهواره اون مهد بهترین جای راحت است برای بچه بچه را وقتی که بیرون میگذاری سرسدا میکند، تو گهواره میذاری آرام میگیرد خوشش میاد جای راحتی است این زمین واقعا برای ما جای راحتی است تو این زمین هر کار میکنیم این زمین چاه میزنیم آب میکشیم این زمین شخ میزنیم زراعت میکنیم باغ درست میکنیم روی این زمین برای خودمون خانه و ساختمان درست میکنیم راه درست میکنیم این شهر اون شهر میریم چقدر ما راحتیم چقدر راحت از این زمین استفاده میکنیم ولی نمیدونیم لذا اللہ عزواجل میفرماید این زمین را محل آرامش برای ذریعی که برای لحظی که این زمین به تکان میاد به زلزله میاد آرامش از دست میره و انسان به این فکر نمیکنه چقدر زمین جای آرامش است الذي جعل لكم الارض مهدا ان که قرار داد این زمین را برای شما محل آرامشی و جعل لكم فيها سبلا بعضی از جزیات اون آرامش قرار داد برای شما در این زمین راهایی لعلکم تهتدون این که شما به منزل مقصود برسید راهنمایی بشید یعنی به منزل مقصود هدایت اینه که انسان به منزل مقصود برسه به جایی که میخواد برسه خب این راحت رسیدن بخاطر خاطر همینی که خدا در زمین راه درست کرده و الذین نزل من السماء ما ام بقدر آن ذات از پروردگار که نازل فرموده از آسمان آب به اندازه نازل فرموده. ببین الله عزّازوجل گرچه گاهی بندگان را امتحان کند آب نمیده بندگان دوچار قحط می‌شند، سرگردان می‌شند. اما در حالت عادی خداوند آب میده به اندازه میده، آب میده به اندازه میده. گاهی ماه مدیریتی منزایی هست باران هیچ مشکلی ندارد. همین اندازه که خدا باریده برای ما داده نیاز ما هست. اما ما برای حفظ نگهداری این آب در اون آبخیزداری در اون نگهداری آب چون سستی داریم چون برنامه نداریم سبب مشکل میشه میبینیم تبدیل به سیل میشه خانه خراب میشه باغ خراب میشه بسیاری از این خرابی ها را اگر دقت بفرمایید این به دلیل باران رحمت نیست به دلیل کوتاهی انسان ها است مثلا گاهی اجای سدی بسته میشه که اینجا نباید سد باشد و یک جایی بای صدی باشد اونجا نمی جای جایی همین امسال که رفتیم الان به ذهنم آمد همین امسال که در کنارک آب آدم ده بود بعد چندی روز مردم پریشان بودن تا یک میتخونه ها زیر آب بود نگاه کردیم که مشکل از مدیران ما هست از سوی مدیریت هست باران هیچ مشکلی ندارد اگر دلیلش چیه که دریا که شما میدونید دریا چند متر از سطح زمین تر است در کنار دریا آب بید و آب تو دریا نریزه آب بری تو شهر بری شهری که در کنار دریا است بر لبه ساحل است این به دلیل مدیریت است توری اونجا شهر را درست کردن توری مدیریت کردن توری آبانکشی کردن که آب که میاد همین بلوارها جلوی آب را می گیرند نمیره به طرف دریا بر تو خونه ها میره طوری بقول شهردار اونجا شهردار سابق میگفت طوری شهر را درست کرده مثل یک کاسه یک ظرفه از هیچ طرفی راهی نداره که به طرف دریا بر لذا میره تو ها. خداوند اززوجل به اندازه آب نازل می کند چرا؟ گاهی خدای تعالی سیل هم میاره وقتی بخواد عذابش دوگونه هست گاهی سیل هم میاره گاهی قهت هم میاره اما وقتی که رحمت و باران میده به اندازه میده به اندازه نیاز میده شما الان بلاد الهی را مطالب کنی بعضی بلاد هستند که در سال در یک فصل همین فصل بهار خدا بهشون باران بده مثل مناطقی ما کافیه زمین طوری هست که برای یک سال میتونه ذخیره بکنه اما بعضی بلاد که اونجا سرکار مردم با دیمه و با این مسائل است بعد هر ماه باران بیاد بر بل اساس بلاد اونجا خدا به اونها باران میده بر بل اساس بلاد خدا به اونها بعضی جهاز که آب نمیتونه اونجا استقرار بیابد اگر باران بده بالخصوص در جاهای کوهستانی اگر بارانی بده خدای تعالی این همه باران که به ما میده به اونها بده این باران جاری میشه تبدیل به سیل میشه تمام شهرها را خراب میکنه اونجا خدا باران نمیده اونجا برف میده که این برف لابلای کوها درون کوها در در رحا به اندازه همون کوها این چی میشه؟ زخیره میشه و در طول سال وقتی که هوا گرمتر میشه به اندازه نیاز مردم کم کم زوب میشه حضرت علام مفتی محمد تقیب حفظه الله یه ای سالی ایشون تاجکستان تشریف بردن همون سال ما هم در خدمت شیخ خلی اسلام اونجا رفتیم و ایشون گفتم من وقتی که تو هواپیما بودم اونجا گفتن گفت من نیت کردم این نکترات تو تفسیرم بنویسم وقتی که من تو هواپی بودم و روی این و رشت کوها و رشته کوها هواپیما دیدم تمام لا بالا این کوها پر از از برف این برف ها اینجا چیکار میکنه به ذهنم آمد خداوند اینجا برای اینها ذخیره کرده اگه اینها به شکل باران می آمدن شهرها اینها را نابود میکرد از بین میبرد اینها را خداوند اینجا ذخیره کرده بعدا در طول سال کم کم برایشون ذوب میشه بر اساس اون گرمی هوا و تو این جو رودخانه کم کم مردم ازشون استفاده می کنم برای زراعتشون برای باغشون برای آشامیدن برای نیازهای دیگر اونجا فرمودم به ذهنم آمد که یکی از صورتهای تفسیر والذی نزل من السماء ما بقدر این نکته است من تصمیم گرفتم که تو تفسیرم این نکته را بینیزم لذا اگر انسان فکر بکند واقعاً الله عزوجل هر چیز را به اندازه قرار داده آب را وقتی که نازل می فرماید به اندازه می فرستد به بلدتن زنده کردیم به وسیله این آب شهر ای را قبلند این بلاد ما شهر ما می بینیم که خشک سیاه سخته اثری از بوته سبزی نیست اما وقتی که بارا میاد سبحان الله یک چمن سبزی درست می یک فرش سبز رنگی روی زمین گسترده میشه و پهن میشه این زمین مرده را چطور اللازی یک حوز زنده کرد اینجا خداوند جمله معترضه برای اثبات احیای اموات بعد از مردن می فرمه کذالک تخرجون این جمله معترضه برای ثبوت قیامت است بحث بحث توحید بود و آثار قدرت پروردگار ذکر شد اما چون که این بحث آمد اللہ تعالی می علاوه از توحید معاد را هم ثابت میکنه کذالک تخرجون این گونه شما از قبرها چی می بیرون کرده می شوید این گونه اینجا قیاس به دو چیز هست یکی این که همانگونه که شما گونه که این زمین مرده زنده شد شما وقتی که تبدیل به اموات بشه زنده میشه. یکی این که تبدیل ارز کنم که قیاس به همین صورت هست به همین حالت هست چون در حدیث می آید در صحیح بخاری هست این حدیث که خداوند از زوجال وقتی که بخواد مردها را زنده بکند قبل از اون باران میاد باران میاد و این اثر باران ته زمین وقتی که می ره تمام مردها زنده میشن و از زمین سر بیرون می پس اونجا هم باران می آد کذالک تخرجون و خلق خَلَقَ كلها وصف اسفیچارو میبارواردی کار. الله اون ذاتی هست. اینا همیت تنویر برهمون مودد آب و اون چیزی که مشرکین خودشون قبول داشتن که خالق الله هست. و کدوم الله؟ الله وی جعل لكم الارض مهدا. وصف اول بود. و جعل لكم فيها سبلا. وصف دوم بود. واللذی نزل من السمائِ مان. وصف سوم بود. واللذی خلق الأزواج كلها. این وصفه چارمه است. مراد از ازواج مذکر و معنیس نیست. نروماده نیست. تنها این نیست. مراد از ازواج انواع هست. ضروب هست. شامل نروماده هم میشه. شامل سردی و گرمی میشه. شامل از کنم تلخی و شیرینی میشه. چنانچه علامه رازي إمام رازي وعلى ما قاله سيهرده اسقول ابن عباس مفرمان قال ابن عباس الأزواج الضروب والأنواع أقسامه أنواع كالحلوف والحامز والأبيض والأسود والذكري والأنثى وغيرها هم هي الله عز وجل يعني انت نفويك در الدنيا مبنيد یکی خوشه، یکی ناخوشه، یکی سیاه است، یکی سفیده، یکی شیری یکی تلخه، یکی گرمه، یکی سرده، یکی مرده، یکی زنه. همه اینها را، این تناظر را، الله از زواجل به وجود آورده. وجعل لكم من الفلک و قرار داد برای شما لام برای انتفاض، برای نفع شما از کشتی و چرپایان ما ترک اون چیزی که شما سوار میشید. یعنی چه نعمت های خدا در اختیار شما گذاشت شما راحت سوار میشید اما الله انتظار دارد شما وقتی که سوار میشید شما شکر پروردگار را بکنید همه اقسام شکر لتسبو علی ظهوریه تا که شما مستوی بشید قرار بگیرید بر پشت یعنی با اطمینان بر پشت ان قرار بگیرید ثم تذکر نعمت ربکم سپاس فکر کنید خدای ازدوجل از بندگانش انتظار شکر دارد اما ما انسان ها فکر میکنیم که شکر فقط شکر زبانی هست در حالی که چندین نوع شکر وجود دارد اولی شکر شکر قلبی هست ثم تذکر و نعمت ربکم نعمت پروردگار را یاد کن تو قلبت خدا چقدر راحت کرده برای من از اینجا سواپ ما سوار میشم بعد از یک ساعت 2000 کیلومتر راه رفتم از اینجا ماشین سوار میشم در زمان قدیم آبا و اجداد ما در ظرف سی روز میرفتم من در ظرف یک ساعت اونجا میرزم اول قلبن تشک قلبا یاد کن نعمت پروردگار را یاد کردن نعمت که خداوند برای ما چه تسهیلاتی فراهم آورده این هست شکر قلبی و ذکر قلبی لذا اولین چیز اینه ثم تذكروو نعمة ربكم سبس فكر كونيد والذكر كونيد دل نعمة رب تنرى إذا استويتم عليه وقت كبروا قرار غرفتي وتقولو ان تلقين الشكر زبانياس ان تلقين الشكر قلبي بود ان تلقين الشكر زباني وتقول فهم سبحان الذي سخر لنا هذا پاکس از آن ذاتی که مسخر کرد برایم این را تابع ما قرار داد در اختیار ما قرار داد و ما کننا له مقرینین ما نبودیم تابع کننده این یعنی ما نمیتونستیم این را رام کنیم ولی خدای عز اورا او را الهام فرموده او را فرموده شطوری هست که به اندازه ده ما قدرت داره اما به دست بچه کوچکه رام میشه میخوابت بلند میشه روش سوار میشه بار میزار هر کار میکنی هیچ هیچی نمیگه وما کنن لهو مقرنین و اینا الى ربنا لمنقلبون این بعد از این که شکر زبانی کردی و شکر قلبی کردی آخرت را یاد کن و ان سومی تلقین ذکر آخرت تلقین ذکر اما ذکر آخرت با هم شکر عملی میشه یعنی انسان باید طاعت بکند عبادت بکند گرچه خداوند عز و جل بعد از این وجعل له من عباده جزعن عبادت غیر الله را مطرح کرده از مفهوم مخالف مشخص میشه که انسان باید چیکار بکند انسان بجای جای اینکه در مقابل این پروردگار که این احسان را کرده کرنش بکنند سجده بکند عبادت بکنه، رفته غیر خدا را پرستش میکنه. پس و اینا الى ربنا لمنقلبون همانا ما بسوی سوی پروردگارمان برمیگردیم بازگشت ما رجوع ما بسوی پروردگار هست پس خدای عزوجل اون خدا هست که این نعمت بشما را به شما انسان ها وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين ام اتخذ مما يخلق بنات و بالبنين بالبنین و اذا بشغ احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه ظل وجهه و كظيم بعد از اینکه دلیل اعترافی بیان شد در تنویر اون دلیل در پرتوبه توضیح اون دلیل بعضی از نعمت های پروردگار ذکر شد اوصاف پروردگار که در قالب اون اوصاف نعمت های بیکرانی بود الذي جعل لكم الأرض محتا وجعل لكم فيها سبلا والذي نزل من السماء ماءا والذي خلق الأزواج كلها إلى آخره تاينك خداوان وان ذكر فرمود أنواي مراكب وأنواي سواريها مثل كشتها مثل شارفايان همينها براي الرفاه شما براي الراحة شما إنسانها و این نعمت ها بیشتر برای این هستند که شما از این نعمت ها استفاده کنید و شکرگزار پروردگار باشید هم شکر قلبی، هم شکر زبانی، هم شکر عملی و جعلو له من عباده جزءا در این آیه خدای عز سرزنش می کند بندگان ناشاکر را توبیخ بیان می فرماید برای بندگان ناسپاس، نمک نشناس اونهایی که همه نعمتهای خدا تعالی را استفاده می کند به جای شکر، به جای عبادت، به جای سجده با خدا شریک می سازد. دیگران را شریک خدا قرار میدهند و جعلو له من عباده جزءا چه کسانی را شریک خدا قرار میدهند؟ بندگان خدا را ببینید همیشه کسانی که شرک کردن بند را و مخلوق را با خالق شریک کردن و جعلو له من عباده قرار دادن برای پروردگار از بندگانش خداوند نفرمود و جعلو له من احجاره سنگ چون را همو مشرکی همون که سنگ می او به گمان خودش بنده صالحی را می پرستید هدف او از پرستش سنگ نبود اون فردی بود که این سنگ را به شکل او در آورده بود پس بندگان را می پرستید سلحا را می پرستید. و جعلو له من عباده قرار دادم برای خداوند از بندگانش جز یعنی بندگان را جز خدا قرار دادند اولاد خدا قرار دادند نائب خدا قرار دادند و صاحب اختیار از خدا از طرف خدا قرار دادند که گویا خداوند اینها را یا فرزند خود قرار داده یا نائب خود قرار داده یا نماینده تاامل اختیار خود قرار داده این فسادی است ببینید مشرکین که شرک کردن با خداوند مفاسد مختلفی در این شرکشون بوده یک جزئیات یعنی هر کسی را که با خدا شریک قرار دادن جزء خدا قرار اونطور همونطور خداوند الهاس او هم الهاس همونطور که خداوند مختار است او هم مختار است همان گویی که خداوند معبود است او هم معبود است متصرف است او هم متصرف جزئیات دوم بنتیت بعضی از مخلوقات خدا را دختران خدا قرار دادند، مثل مشرکین مکه که ملائک را سفومی فساد انوثیت یعنی مؤنس اعتقاد داشتن معتقد بودن فرشتگان دختران در حالی که فرشته و ملک نہ مذکر است نہ مؤنث است خداوند عزوجل این جنسیت را که تذکیر و تانیس را درون ها نیافرید همه را یکسان آفریدہ نہ مذکر و نہ و چهارم الوهیت اله قرار دادم را معبود قرار ندادم پس خداوند میفرماید این إرادة أول وفساد أول شمس فجعل له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين همانا انسان ناسپاس کفور كفور بمعنى ناشاكر ناسپاس اما ناسپاسیش إش آشکار است هر کسی میداند هر کسی می‌فهمد که انسان چقدر ناسپاس است که با خداوند شریک ساخت و زجر دیگر سرزنش دیگر خدا بیان می فرمد ام انتخذ ما یخلق بناتیم و اصفاکم بالبنین آیا خداون انتخاب فرموده و اتخاذ فرموده از مخلوقش دختر مما مم یخلق بناتیم برای خودش دختر و اصفاکم بالبنین و شما را برگزیده برای شما برگوزیده پسر شما رو برگذیده با پسر داشتن که شما پسر داشته باشید برای خودش دختر نگه داشته ببینید پسر و دختر فرقی ندارد اما اینجا خدای عزواجل بر اساس اعتقاد و زن خود مخاطبان مشرکان سخن میگه چون از نظر انها خیلی فرق داشت در ادامه همین آیه میخانیم که اگر به کسی وش خبری میدادند که در خانه دختر متولد شده چهرهش سیاه میشد خجل میشد شرمنده میشود وقتی بسا اون دختر را از بین برد زنده به گورش میکرد این قدر دختر داشتن را اونها بد میداندند حال خدا میفرما شما که این عقیده را دارید برای خودت نمیپسندید برای خدا میپسندید این اشکال دوم هست دو این اشکال فساد دوم هست بنتیت یعنی اعتقاد به دختر داشتن دختر بودن ملائکه از کجا میفهمینه دخترم الله میفرمايت ام اتخذ مما يخلقه بنات ای خداوند انتخاب فرموده از آنچه که به شما اضافه بنویسید تا که مشخص بشه بر اساس گمان اونها خداوند سخن میگه آیا انتخاب فرموده از آنچه که خلق فرموده برای خودش دختر برای خودش دختر انتخاب کرده و اصفاکم بالبنین برگوزیده شماره با پسران در حالی که خودش ما اینگونه هستید و اذا بشره احدهم بما ضربه لرحمن مکلن هرگاه مجده داده بشه یکی از اینها به آنچه که برای رحمان صفت بیان میکنه صفت یعنی دختری رحمان صفت میکنه به اون که خودش وصف میکنه برای رحمان نسبت میده به رحمان وقتی که خودش به اون بشارت داده میشه ظل وجهه مسود دن سیاه میشه و هوا قضیم و پر غم میشه پر اندوه میشه خودش برای خودش اونطور اکس و عمل نشان بیده اون وقت برای خدا میگه خدا دختر داره و بعد خدا تعالی میفرمید او من یونشعو فی الحلیه دختر و زنها ایرادی ندارن اما خدای عزواجل برای کار دیگر اونها را آفریده برای اینکه کار نیابت و خلافت و امور سخت دنیا را داشته باشند برای اونها نیستند به همین خاطر کارهای سخت را میبینی محول مردان انجام میدند اونها را خداوند به این شکل وصف میفرماید او من شاو فی الحلیه آیا اون کسی که نشو نوامی آبد در زی از همون توفولیت و زمان کوچکی عشقش شی هست دیواره لات است خوشیش بازی ورالات است یک پسر هیچ وقت بازی ورالات سروکاری ندارد و هو فی الخصام غیر مبین و اون در خصام در بحث کردن در جدل کردن غیر مبین زیاد آشکار و واضح نیست یعنی خوب به صورت واضح نمیتونه از خودش دفاع بکنه عموما زنها در استدلال و در بحث کردن ضعیفند زود زنها ساکت میشن چون که زیاد بالات نیستن جر رو بحث بکنند، دفاع بکنند، قدرت خصومت را ندارن، قدرت بحث کردن را ندارن. پس این مخلوق خدای از زوجات که خدا اون را ضعیف آفریده برای هدف دیگر آفریده اونی که در زیورالات نشو نما میشه رشد میکند بزرگ میشه و در بحث و مباحثه در بحث کردن و خسام غیر مبین واضح اون را شما نائب خدا قرار دادید مگه چی کسانی را قرار دادند خداوان می فرماید و جعلو الملائکتا لذین هم عباد الرحمن انافا اینها قرار دادند ملائکه را اون ملائکه که بندگان الرحمن هستند اینها را موننس قرار دادند این فساد سومشون هست فساد سوم انوثیت از کجا می دونی ملائکه دخترند اشهیدو خلقهم آیا اینها به وقت پیدایششون حاضر بودند اینا اونجا حضور داشتن که بدونن پسر متولد شدن یا دختر عرض کردن فرشتگان نه مؤنثن نه ولی الان که میگوین دختران خدا یک نوع شهادت زور و شهادت دروغی داره میگن خداوند اینجا تهدیدشو میکنه شهادت هم حتما شهادتیشون نوشته میشه حتما این گواهی که اونها گواهی میدهن در دفتر اعمالشون نوشته میشه این تخوی فخروی است و یسالون در این مورد سوال میشن در روز قیامت از اونها بازخواست میشه که شما که فرشتگان را دختر خدا قلم داد کردید عنوان کردید شما از کجا میدونید که اون دختر هستند این زجر الهی بود و توبیخ الهی بود بر اعتقادات فاسد اونها و بعد زجر دیگر زجر قولی دیگر اونها میگفتن که خدا خواسته که ما اینها رو عبادت کنیم اگر خدا نمیخواست ما عبادت نمی و قالو لو شاء و ما عبدناهم این فساد چارم یعنی معبودیت آنان ان میگویند اگر رحمان میخواست ما عبدناهم ما عبادت نمی کردیم مالهم بذلك من علم این را خداوند میفرما این جمله را بدون دلیل میگویند نیست برای آنان هیچ نوع علمی یعنی هیچ نوع دلیل عقلی برایش وجود ندارد بدون دلیل این ادعا میکنن می هم انهم الا یخرسون و این گفته شون را خداوند میفرمد یک سخن زنی و تخمینیست نیستن آنان مگر یخرسون یعنی تخمینا میگویند زنن می گوین را اهل تفسیر میفرماند. یقولون یکولون قولا باطنن به زن و تخمین قول باطل بر اساس زن و تخمین می کجا خدا برای خودش دختر انتخاب کرده و خدا فرشتگان را به عنوان نصب و دختران خودش برگزیده کی گفته این را قفتهم <متحدث> دليل عقلي ندارن ما لهم بذلك من علم حال مفرمت دليل نقلي هم ندارن يعني نروايتي والنقلي اس كتب السابق دارن ونر دليل دليل عقلي دارن ام آتيناهم كتابا آية ما بأنها كتاب دادیم من قبل قبل قبل زين قرآن كتاب مغبشون داد شده كفهم به مستمسكون که آنان به اون کتاب چنگ بزنند به اون کتاب متمسک بشند نه یعنی اون که میگوین نظری را که اونها ارائه میدهند این نظرشون بر اساس زن و تخمین بس بر اساس گمان باطلشون است. نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی دارن چرا؟ امد دلیلشون امد دلیلشون پدرانشون هست یعنی تقلید کور کورانه از آبا و اجداد دیگه چیزی ندارند بلقالو قالوا ان وجدنا آبا انا على امه بلکه آنان گفتند همان ما یافتیم پدرانمان را بر روشی یافتیم که انها این روش را داشتن و اینا علی آثارهم مهتدون همانا ما بر آثار بر نشانات قدم های بر نقش قدم انها مهتدون یعنی هدایتیم راه میریم راه شدیم در حالی که این دلیل این استدلال استدلال تمام گمره‌های گذشته است. هرچی انسان در گذشته انسان‌هایی که گمراه بودند همه آمینه می‌گفتند. چی می‌گفتند؟ و کذالک ما ارسلنا قبلك قرية، قبل قرية من قبل کفی قریه اینگونه ما فرستادیم قبل از شما در هیچ قریه ای من نذیرن هیچ نوع نظیری را هیچ در را، الا قال مطرفوها مگر انسان های مرفه گفتن طرف میگوین خوشگذرانی را مطرفین یعنی انسان های خوشگذران، انسان هایی که زندگیشون را در عیش و نوش میگذرانند در رفاه میخوان باشند و بس مگر در هر امتی مترفین گفتن انسان خوشگذران گفتند گفتن چی گفتن؟ اینا وجدنا آباءنا علی امت همانا ما یافتیم پدران من را بر روشی و اینا علی آثارهم مقتدون همانا ما بر آثار اونها اقتدا می بر نقش قدم اونها بر نشانات قدم های انها مقتدی هستیم اقتدا میکنیم پیروی میکنیم تقلید میکنیم هر چی پدرانمون را دیدیم اما رسول چی جواب دادن ببین در گذشته همه مردم همینو میگفتن همه انسانهای دارای ثرو و عیش خوش اما جواب رسول را بشنه قال اولو جئتكم با اهدا مما وجتم عليه اباءكم قال یعنی رسول جواب رسول پیغمبر اون زمان می گفت: اولو جئت آیا پدرانتون تون را پروری می کنید و لو بعد از حمزه استفهام جمله مقددرس: آت تتبعون آباء کم آت تتبعون آباء ولو جئت آیا شما پدرانتون را پیروی میکنی؟ گرچه من پیغمبر بیارم برای شما به اهدا یه چیزی که بر هدایت بیشتر باشد روشی که اون روش بیشتر راهنماییتون بکند بکند مما وجدتم علیه آباکم از آنچه که یافته بران پدرانتون یعنی من پیغمبر اگر یک روشی یک طریقی که بهتر باشد از طریقه پدران شما بر نجات باشد آیا بعضن پدارانتون را این پیروی میکنید جواب جهالا جو چی بود جواب مشرکان چی بود قالو ان بما ارسلتم بهی کافرون بدون دلیل گفتم ما قبول نمی کنیم از شما هرچی بیاری ان بما ارسلتم همانا ما به آنچه که شما فرستاده شدید به گمان خودتان به آن ما کافریم به آن منکریم نمیپذیریم قبول نمی کنیم وقتی که چنین جواب دادند این اناد از خود نشان دادند این تعصب خشک و خالی و بیجار نشان دادند اللہ عز و جل ہم انها را به عذاب گرفتار کرد. این تخویف دنیاوی از فانتقمنا منهم ما انتقام گرفتیم از آنان فانظر کیف کان عاقبت المکدبین ببین انجام تکزیب کنندگان انهایی که دین حق را و مسیر حقرا تکذیب کردن انجامشون چی شد برو مطالعه کن اقوام گذشته را اونهایی که انبیا را تکذیب کردن به چه حال زاری گرفتار شدند خب پس این عرض به خدمت شما بیان کفر و شرک و اتخاذ ولد و اتخاذ نائب مشرکین بود برای خداوند و جوابی اونها جواب, جواب رسول و اینکه اون مشرکین هیچ دلیلی نداشتند. حال بعد از اینکه خداوند احوال اونها را بیان فرمود، دلیل نقلی تفصیلی بیان می‌فرماید از کو زشتے. اولین دلیل نقلی از سیدنا ابراهیم عليه السلام است. ابراهیم پیامبر، ببینید او هم با چنین افراد جاهلی مواجه بود. باچینین امت نادانی مواجه بود، قوم نادانی، اونها هم همیشه شرک کردند. ابراهیم چی گفت به اونها؟ و اذ قال ابراهيم ل و زمانی که ابراهیم گفت به پدرش و به قومش اننی براء مما تعبدون ای پدر ای قوم من بری هستم من بیزار هستم مما تعبدون از عبادت آنهایی که شما پرستش میکنید من از عبادت خدایان یعنی شما بیزارم کی را عبادت میکنی ابراهیم الا اللذی فطرنی مگر آن ذاتی که مرا خلق کرده ببینید همیشه توحید شامل دو بخشه نافی و اثبات لا الهه این نافی است ایلا الله اینجا ابراهیم هم ابتدا نافی می اننی اننی براون ما تعبدون من از آلیه شما بیزارم این چی میشه لا الهه یعنی دیگه معبودی نیست ایلا اللذی فطرانی چیه؟ ایلا الله است بس اون ذاتی که مرا خلق کرد فإنه سيهدين اون پروردگار حتماً مرا راهنمایی کند این که به معنای حتماً میگونم قبلا هم آیه به همین معنا کردم سین در حالی که شما خندیس سین برای تقریب است باید اینطور ترجمه بشه سيهدين ان قریب مرا راهنمایی کند ولی نه سین گاهی به معنی تقریب میاد گاهی به معنی تاکید میاد گاهی به معنای تقریب میاد، جایی به معنای تأکید میاد. به معنای تأکید که باشد، فاينه و سياهدين اینه که خداوند حتما مرره راهنمای میکنه. خب، بل متاعتوها اولاء و آبائهم حتّى جا اهم الحق ها وجعلها كلمه باقيت. ابراهيم عليه الصلاة والسلام همین توحید را همین کلمه توحیدی را کلمه توحیدی ابراهیم چی بود لا اله الا الله گفتیم دیگه اننی برا ام ما تعبودون شد لا اله الا الذي فطرنی شد الا الله این کلمه توحیدی را ابراهیم علی الصلاه و السلام به عنوان یادگار بین فرزندان و نسل خودش گذاشت و جعلها کلمه آن را گذاشت ابراهیم اون کلمه توهیدیه یا عقیده توهیدیه را یک کلمه باقی فی پشت سرش عقبه یعنی در اولادش در احفادش در نسلش لعلهم لهم شاید آنها برگردند از شرک ابراهیم چطور گذاشت این کلمه را ابراهیم وصیت کرد ابراهیم ووصیت کرد هم ابراهیم وصیت کرد هم فرزندان ابراهیم وصیت کردند و وصا ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله استفا لكم الدين فلا تموتون الا وانتم مسلمون تسلیم یک پروردگار بشید بغیر بگزارید کنار پس به صورت ابراهیم این را در نسلش گذاشت به وسیله وصیت بنویسید جعلها کلمتاً باقیتاً تحتش بینیسه به وسیله وسیعت چرا لعلهم یرجعون تا شاید آنان این غرض جعل هست چرا این کلمه را به عنوان میراس گذاشت وسیعت گذاشت تا که نسلش از شرک برگردند خب حالا این قریشی ها از نسل ابراهیم بودند یا نه آیا اینها برگشتند؟ حال خدا عز و نا و ناسپاسی انها را بیان می مخاطبین قرآن قریش مکہ مشرکین مکہ خداون می من همه ی نعمتها را بینها دادم انهایی که مخاطب قرآن هستن فعلی قرآن در زمان رسول اللہ بینها امکانات مادی و رفاعی هم دادم نمت معنوی هم دادم نعمت معنوی قرآن را بیشون دادم رسولی برایشون فرستادم چه رسولی سید الانبیاء هست امام الانبیاء هست خاتم الانبیاء هست چه نعمتی خدا به اهل مکه داد ولی وای به حال اون بدبخت آئی که استقبال نکردن بل متعت ها و آباء اللہ می فرمائے بلکی من بحر گیری دادم انها را منظور از متا استفاده کردن از کالاها دنیا انها را و پدرانشان را استفاده کردند حتی جاءهم الحق حتی که حق پیش آنان آمد حق قرآن است الحق ای القرآن و رسول مبین ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم فرمان من بإنها بقدر نعمت دادم حتى جاءهم الحق حتى كحق يعني قرآن آمد ورسول مبين ورسول وپيامبر فرست داده كأشكارا انا را دعوت مداد آشكار واضح بود دعوتش ولما جاءهم الحق توحين قرآن قرآن بجاية استقبال شكار کر توحين ولما جاءهم الحق زمانی که حق پیش آنان آمد قالو ها سحر گفتن این جادو هست اونا قبول داشتن که قرآن اثری دارد قرآن انقلاب میاره قرآن تحول میاره قرآن همیرا ما تو مبهود کرد قرآن همیرا لا جواب کرد دهانشون واح شد نتونستن جوابی داشته باشند به این خاطر همه این سرگردانی خودشون را توجیح کردن به سحر گفتن این جادو هست بس منکر اثر قرآن نبودند دشمنان هم به فضل قرآن اعتراف داشتند اما این فضل را توجیه نامطلوبی کردن گفت هذا سحر این چیه جادو هست ولما جاهم الحق قالوا هذا سحرن اگر افراد از میان ما رفتند بسیم محمد صلی الله علیه و سلم اونها شکار جادو شدند این جادو در اونها اثر کرده قالوا هذا سحر گفته این جادو هست و انا بهی کافرون ما نسبت به این منکرین ما قبولش نداریم کفر که مقدرشون بود انکار کردن ببین هم اعتراض بر قرآن داشتن و هم اعتراض بر رسول بر رسالت اعتراضشون بر رسول الله چی بود ببین دیگه ایرادی نتونستم بگیرند پیامبران را خدای عزوجل قبل از نبوت هم معصوم قرار داده پیغمبر قبل از نبوت لقبش صادق لقبش امین راستگو است بهترین اخلاق را دارد بهترین برخورد را دارد بهترین انسانیت را دارد اما اشکال کاری که اونها میگرفتند اشکالی نبود در واقع میگفتن چرا سردار نیست چرا سرمایدار میست و قالوا لولا نزل هذا القران انان گفتن چرا نازل نشده این قرآن على رجل من القريهتين بر بزرگ مردی از این دو قریه منظور از دو قریه چی بود مکه و طائف که نزدیک به هم بودن از این دو قریه عظیم عظیم صفت مرد چی رجل هست یعنی علی رجل عظیمی من القریت بر بزرگ مردی از این دو قریه یعنی بر یکی از رؤسا چرا نازل نشد در مکه رئیس کی بود سردار کی بود ولید ابن مغیره در طائف که بود عروه ابن مسعود ثقفی. چرا این قرآن مثلا بر ولید نازل نشد اگر خدا میخواست فرستاد پیغمبری بفرستد همون بزرگترین شخصیت از نظر رتبه و جایگاه را می فرستاد ولید را می فرستاد و اوروا ابن مسعود ثقفی را می فرستاد اما جواب را خدای الزواجل در جای دیگه فرموده الله اعلم حيث يجعل رسالته خدا بهتر میداند رسالتش را کجا بساراد کدوم قلب صلاحیت دارد ارزشش را دارد بس اونها گفتند که چرا از این دو قریه که مکه و طایف باشد یک سرداری انتخاب نشد و نبوت به او داده نشد خداون میفرماید فرماید اهم یقسیمون رحمت ربک آیا آنان تقسیم میکنن رحمت پروردگار را؟ این نبوت رحمت است نحن و قسمنا بین هم خداوند هم خداون رزق و مال و روزی را ما تقسیم میکنیم چه برسد به این نعمت خاص ببینید نعمت عام را خدا می ما بدست اینها ندادیم تا چه برسد به نعمت خاص نعمت عام چیه رزق و روزی لقمنان خداون میفرماید تقسیم او را هم ما بدست شما ندادیم خود ما تقسیم میکنیم حال این نعمت خاص را به دست شما بیدیم، شما تعیین کنید که چه کسی صلاحیت دارد؟ نه، این را ما خودمون تقسیم میکنیم، لذا وقتی که حتی معیشت رزق روزی که نعمت عام است به دست آنها نیست، آیا بزرگترین نعمت یعنی نبوت را ما به دستشون بیدیم؟ نعم کار نداره لذا خداوند میفرماید نحنو قسمنا بهم يقسمون رحمت ربک آیا آنان تقسیم میکنند نعمت خاص رب را یعنی نبوت را نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ما حتا تقسیم کردیم معیشت و رزق روزیشون رو در زندگی دنیا معیشت را هم ما میدیم و رفعنا بعضهم فوق بعض ما برتر قرار دادیم بعضی را بر بعضی درجات از نظر معیشت درجات دادیم مرتبه دادیم جایگاه دادیم چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخريه. این لام لام عاقبت است عاقبت و نتیجه این میشه که بعضی بعضی را به خدمت میگیرند بعضی بعضی را به خدمت میگیرند ببینید گاهی شاید در ذهن همه من و شما بیاد که چرا خداوند از و جل بندگان خودش را برابر نیا فریده یکی دارد یکی ندارد یکی توانگر است یکی نتوان هست یکی پولدار است یکی گدا است. گاهی تو این فضاهای مجازی میبینیم بینیم بعضی از مردم که زیاد اقل و خرد, ندا، اقل و خرد کاملی ندارند همین اعتراض را می کنند چرا خدا اینها را فغیر آفریده چرا خدا اینها را نادار آفریده اینجا خداوند من علتش را فرموده لیت تخیذ بعض هم بعضا سخريه. انجام و عاقبت این میشه که مردم هم دیگر را به خدمت میگیرند چطور به خدمت میگیرند؟ اگر همه مردم اگر همه مردم سرمایه بودند اگر همه مردم دنیادار بودند همه چیز میداشتند اون وقت خدمات را کی انجام میداد؟ کسی میرفت کارگاری میکرد کسی میرفت چوبانی میکرد کسی میرفت آیا از کنم که کوچه و خیابان را جارو میزد کسی می رفت باغداری می کرد کشاورزی می کرد نه هر یکی می من خودم دارم من چرا برم اون وقت دنیا بفساد کشیده می شود هیچ کس نبود که خدمات را انجام بده خدا تعالی یکی را توانگر آفرید یکی را ناتوان تا اینکه محتاج هم دیگه باشند چطور محتاج هم دیگه ببینید شما که سرمایه دارید شما نیازمند فقیر هستید شما محتاج او هستید شما میگی بیا برای من کار بکن بیا برای من ساختمان درست کن بیا از گوسفندانم نگهداری کن بیا از از باغم نگهداری بکن مغازه‌ام را اداره بکن بس شما را خداوند محتاج او قرار داده او را خداوند محتاج پول شما قرار داده او کار میکنه شما پول میگیره به این صورت نظام عالم چیه؟ اداره میشه و ادامه پیدا می کند. اما اگر همه مردم فودال بودن سرمایدار بودن پولدار بودن کسی برای کسی کار نمیکرد. اون وقت مختل باید همه کارهایبمون را خودمون می کردیم باید گوسفندان خودمون نگهداری میکردیم باید باغ خودمون باید ساختمان را خودمون می زفتیم نمی شد دیگه؟ اون وقت تمام بقیه خدمات شما نگاه کنی نجاری هست آهنگری هست و و تمام کارهایی که انجام میدم مردم اینا همه تاثیر میشد کی میره دیگه وقتی پول داری کار بکند آیا نظام مختل میشد فاسد میشد یا نه لذا خدای تعالی میفرماید ما اگر انسانها را درجه بندی کردیم طبقه بندی کردیم یکی دارد یکی ندارد یکی بالاست از نظر مادیاتی که پایین است نه اینکه یکی افضل است و یکی غیر افضل است و مفضول است بلکه تا اینکه شما بتوانید به درد هم دیگه بخورید لیت تخیده بعضهم بعضا سخريه تا که بعضی بعضی را به خدمت بگیرند پس اگر بعضی از شما دارید و بعضی ها ندارید فلسفش اینه معنیش این نیست که او که دارد بهتر از این که ندارد نه بهتری با تقوه است بهتری با, با ایمان است و رحمت ربک خیرون مما یجمعون و بعد اینا چقدر بیخردن بیعقلن که فکر میکنن افزل اونی که سرداره افزل اونی که پول داره نه رحمت پروردگار یعنی نبووت بهتر است از اون که مردم جمع میکنند یعنی چه؟ یعنی فضیلت و برتری در دین هست و در رتبه دینی هست نه در رتبه دنیوی و رتبه مادی هر کسی که از نظر معنوی رتبهش بالاتر است او بهتر است نه اون کسی که از نظر رتبه دینی بالاتار شما اینهایی که شما نام میبرید اینها اونها از نظر مادی رتبه بالاتار از نظر معنی هیچ جایگاه ندار مشرکند لذا این جواب است تکمیل جواب تکمیل جواب در ادامه خداوند میفرماید اصلا این دنیا برای ما ارزشی ندارد مادیت برای ما هیچ ارزشی ندارد خداوند میفرماید که اگر بین این نبود اگر خطر این نبود که مسلمانان ضعیف آدم های فریب بخورند اگر خطر این نبود ما به کفار اینقدر سرمایه میدادیم، دادیم اینقدر مال میدادیم که خانه هایشون را ساختمان های خودشون را از طلا و نقره درست کنند چون پیش خدا ارزی ندارد اون وقت اگر اینطور طور باشه یعنی کفار همه چیز داشته باشن مسلمان هیچ داشته نباشد اون وقت مسلمان ضعیف فکر میکنه که مسیری که کفار انتخاب کردن مسیر حق است همه میرون به همون سمت به این دلیل است که خداوند فقط و فقط به کفار نمیده و الا از نظر بیارزشی دنیا اینقدر پیش خدا بی است که اگر به کفار همه چیز بده به مسلمانن هیچ چی نده هم آب از آب تکان نمی اما به خاطر این خطر این کار را نمی کنه در حدیث هست اگر دنیا پیش خدای از و به اندازه پر پشه ارزش داشت اون وقت به کفار یک جرع آب نمی ارزشی نداره که خدا داده هم به کافر داده هم به مسلمان پس دادن خداوند به کسی مال را اگر به کسی مال داده بر اساس ارزش نیست همینطور تقسیم علاقی است بر اساس حکمت های دیگه است لذا این تکمیل جواب هست وَلَوْ لَا النَّاسُ أُمَّتَ وَاحِدَةً. قبل از اینکه آیه را ترجمه کنیم تفسیر علامه آلوسی را می خانیم که برای این آیه و مفهوم این آیه بیان فرموده این تفسیر را گوش کنی بعد ترجمه را میفهمید میفرماید می فرماید که استیناف مبین لحقارت مطاع دنیا این جمله مستانفه و جمله است خدا بیان می فرماید برای حقارت کالاهای دنیا و دناعت قدره و پستی قدر دنیا که دنیا پست پسته الله والمعنى معنى هذا آية هذا أن حقارة شأنه بحيث شأن الدنيا وجاء الدنيا إن قدر حقيراً كي بحيث لو لا كراهة أن يجتمع الناس على الكفر اگر خطر إن نبود كمردم بر كفر جمع شوند فقط إن خطر مردم همه كفر وانتخاب نكونند اگر إن خطر نبود ويتبقوا عليه همه متفق بر كفر بشند لا اعطيناه على أتم وجه ما امدادين بصوره كامل من هو شر الخلائق عينيك بدترين خلائق هستند بدترين خلقين كفار هستند مشركين هستند ما بيونها كامل ميداديم دنيا واتناهم منزله ازل منزله و جایگاه اونها پست تر هستند پس چرا به اونها کامل نميديم الاجتماع على الكفر هي المانعة بس اصلی این است که اگر همه چیز به کفار بدیم طلا و نقره بدیم جواهرات بدیم خونه هایشون از طلا و نغره باشند اون وقت بقیه مردم ضعیف فکر می کنند که حتما اینا کرامتی دارن، اینا مقبولیتی پیش خدا دارن. خدا اینقدر بهشون داده حتما راه اینها راه حق است اون وقت بقیه زعیف ها هم همون راه کفرا انتخاب میکنند بس مسلمانان فریب میخوره و ایلا ما به کفار بیشتر از این چی که دارن میدیم معنیش اینه که ای اهل مکه مدار فضیلت مال نیست میبینی اون مال دار میگه چرا اون پیغمبر نشده نه اون چون مال دار از همه افضلتر نه غلطه ولولا ان یکون الناس اگر بیم این نبود که مردم باشند امه واحده یک گروه یعنی اگر این مراد کفر است اگر این بیم این نبود که همه مردم کفر را انتخاب میکنند لا جعلنا لمن يكفر بالرحمن قرار میدادیم ما برای اون انسان هایی که نسبت به رحمان کفر می کنند نسبت به خداوند کافرند قرار می دادیم چی قرار می دادیم لی بیوتهم سقفم من فضتیم برای خانه هایشان سقف های از نقره سقف خونشون چی می شد؟ نقره و معارج و پلکان های اونها اینم از نقره و اون پلکان هایی که علیه های بر آن بالا می روند این را هم از نقره قرار میدادیم و خانه‌هایشون را و لبیوتهم ابوابا و برای خانه‌هایشون هم درهای نقره‌ای و سروراً و تخت‌هایی که علیهات تکون که بر آن تک میدادند همه این را از نقره نه تنها از نقره و زخرفن از هم چنین و زخرفن از زخرف هنا از ذهب ابن عباس ابن عباس میگه منظور زخروف چیه ثلاهاست این سوره سوره ذوقرف است به خاطر این نکته لذا خانهاشون رحم ثلاک خرار میدادیم اما اگر ما این کار بکنیم زیف ها فریب میخورند و این کل ذالکا لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نیستند همه اینها مگر کالای زندگی دنیا اینها کالای زندگی و استفاده کردن در دنیا هستند، اینها موجب ارزش انسان ها نمی شوند لذا اون چیزی که انسان باید به اون دل ببندد و ارزش دارد آخرت هست و نجات در آخرت هست و عند ربک للمتقین آخرت نزد پروردگار برای متقیان است برای اهل تقوا است بنابر این پولدار بودن و مالدار بودن ملاک برتری نیست و من يعش عن ذکر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين در ادامه هم خداوند زاجر بر کفار بیان می‌فرماید سرزنش و توبیق و هم با این سرزنش توبیخ تخویف اخروی هم هست و علت گمراهیشون هم همینجا بیان شده چرا اینها گمراه هستند چون شیطانی گماشته شده مسلط شده برای اونها تعیین شده و اون شیطان راحت فریبشون میده اینها هم گوش به فرمان اون شیطان هستند به این دلیل اینها از دستورات رحمان سرپیچی میکنند بس انسان را که بدبخت می کند از را بی را می کند شیاطین و من یعشو عن ذکر الرحمن اما شیطان بر چی کسی مسئلت می کسی که زندگی کند عن ذکر الرحمن طلاب می که عن برای اعراز است رویگردانی هست یعنی زندگی زندگیه که در اون زندگی, زندگی رویگردان باشد از ذکر پروردگار از عبادت خدا کسی که طور زندگی بکند که تو زندگیش اصلا خدا را مد نظر ندارد بالله به خدا پشت میدهد به دستور خدا پشت میدهد به کلام خدا پشت میدهد ذکر الرحمن اصلش قرآن است این در واقع نتیجه و سمره اعرازن القران است ذکر شما قبلا خندید که مراد ذکر قرآن است خیلی جا. بس هر کسی طوری زندگی کند که در زندگی خودش از قرآن روی گردان باشد و من یاشوان ذکر الرحمن هر کسی زندگی کند در حالی که روی گردان باشد از ذکر رحمان نقید له شیطانا ما مسلط می کنیم یا تعیین می کنیم برای او می گماریم برای او شیطانی چنان شیطان اف که فهو له قریب این هر وقت هر لحظه همدم او هس هم و هست همراهی وست همیشه شیطان با او همراه است خب شیطان کی با او همراه است چیکارش میکنه و انهم لا يسدونهم عن السبيل مشغله شیاطین همانا این شیاطین آنها رباز سهی هم یعنی را باز میدان از راہ صحیح لا يسدونهم عن السبيل یعنی کفاره دوستان خودشون را از راه صحیح از راه حق باز می همیشه شیطان که کافر را باز می‌دارد، کافر بیچاره فکر می کند در حالی که پیروی شیطان می کند. فکر می کند که من ویحسبون انهم مبتدون آنها بر هدایت است به همین خاطر کافر مشرک مبتدع اهل بدعت اهل خرافات هیچ وقت قابل هدایت نیست چرا چونکه هر ایب و ایرادی که دارد ایب و ایراد خودش را هنر میداند مثلا شرک را عبادت میداند بدعت و خرافات را سنت میداند خب کسی از عبادت توبه میکند نه مگر اینکه خدا او را بفهماند به این خاطر این شیاطین مشغله شیاطین چی هست و انهم لا یسدونهم عن السبیل اینها از اونها را از راه راست باز می‌دارند و حسابون انهم محتدون خود اونها فکر می‌کنند که اونها هدایت یافته هستند بر راه راست هدایت شدن. که متوجه میشه که میفهمد خداوند می‌فرماید زمانی که در محضر ما حاضر میشه زمانی که قیامت برپا میشه و به حضور خداوند میرسه اونجا پشیمان میشه حتى اذا جاءنا حتى که پیش مامی آیند همي مجرمين قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين بشيطان ميگويت ندامت و حسرت مجرمین می به شیطان یا لیت بینی و بینک کاش بین من و بین تو بعد المشرقین دوری مشرق و مغرب بود فبئس القرین این علت است چون قرین بسیار بدی هست همدم و همراه بسیار بدی هست میگه کاش بین من و این قرین من همراه من به اندازه فاصله مشرق و مغرب اینقدر از هم دور بودیم اما خداوان میفرماید، الان, می الان این تمنا را می الان این آرزو را داری این آرزو را که الان داری هیچ فایده برایت نداره دور شده و لن ینفعکم اليوم هرگز برای شما نفعی ندارد امروز از ظلمتم این علت هست ای از اشراکتم وقتی که شما شرک کردید به خدا شریک گرفتی لذا برای شما هیچ نفعی ندارد چی نفع ندارد؟ انکن فی العذاب مشترکون اینکه شما با اون شیاطین در عذاب مشترک هستید این هیچ سودی برای شما ندارد لذا ببینید خداوند عزواجل این کفار را که با شیاطین همدم و همراه هستند فرمودن اینها قابل هدایت نیستن چونکی اینها هر شرک و هر گندی انجام میدن یحسبون انهم محتدون میپیندارن که اینها بر هدایت هستند لذا ای پیامبر شما هم نمیتونید اینها را هدایت کنید شما هم نمیتونید اینها را براه راست قرار بدهید چونکی اینطور فرض کن که شما داری سخنرانی میکنی برای کسی که کار هست ناشنواه هست میشناواد کار نخیر شما گویا راهنمایی میکنید کسی را که کور و نابینا هست میبیند نخیر خداوند کفار را تشخیص میده به کار کور به و نابینا افأ انت تسمع سما آیا شما میشناوانید کر را یا تهدیل یا نشان میده هدایت میکنی کور را من کانا في ضلال مبین و هر کسید که در گمراهی آشکار باشد شما میتونی او را هدایت کنید نه گرچه وظیفه شما تبلیغ است ولی کار شما هم نیست کہ خدا اگر بخواهد هدایت شمای فرماید. لذا پس شما کارت را انجام بده کارت را ادامه بده اينها اگر ایمان نیاورن ما اینها را عذاب می‌دهیم اون عذابی که بهشون می‌دهیم یاش در حضور شما در حیات شما با وجود شما یا اینکه بعد از وفات شما ولی علی هر حال وعده خدا این است که اینها را به کیفر اعمالشان برساند فاما نذهبن نبک فانا منهم منتقمون اگر ما شما را ببریم همانا ما از آنان انتقام می گیریم اگر شما را ببریم انتقام را ازشون می گیریم او نورینکالذی وعدناهم یا اینکه شما را نشان بدهیم آنچه که ما وعده کردیم با آنان فا انا علیهم مقتدرون همانا ما بر آن قادر هستیم توانا هستیم یعنی چه شما تشریف داشته باشید یا اینکه شما شما تشریف داشته باشید ما قادریم از اونها انتقام بگیم اما وظیفه تو چی هست ببینید وظیفه رسول الله و وظیفه هر دعوتگر توحید اینه که او به قرآن چنگ بزند و منتظر فیصله خدا باشد فستمسک بالذی اوحیه الیک این امر امر للبقاء هست امر بقایی هست نه اینکه که از الان شروع بکن به قرآن چنگ زدن یعنی همونطور که قبلا چنگ میزدی ادامه بده فستمسک یعنی محکم بگیر بالذی اوحیه الیک اون کتابی که وحی شده بسوی شما شما این ریسمان را رها نکن این کتاب را رها نکن تا زمانی که کتاب در دست شما باشد قرآن در دست شما باشد اینه که على صراط مستقیم شما بر صراط مستقیم هستید بس عزیزان شما احوال دنیا را نگاه نکنید خوبه یا بد کارها تبقی مراد پیش میره یا نب شرائط به ذرر ما هست من و شما وظیفه داریم در هر صورت به قرآن چنگ بزنیم تنها راه نجات همینه چه خداوند دشمنان ما را از بین میبرد چه از بین نمیبرد چه دشمنان ما در بالاتری موزه قدرت هستند یا نیستند موظیفه ما فقط چنگ زدن به قرآن کریم هست و این را هم بدونید که انسان فقط و فقط با قرآن به پروردگار نزدیک میشه با هیچ کتابی دیگری نمیشه چون راه و رسم زندگی را راه ایمان را راه عمل را راه اخلاق را قرآن را قرآن قران خوب راهنمایی میکنه کسی دیگه کتاب دیگه نمیتونه مثل قرآن خوب راهنمایی کنه اگر خوب تر از این بود خداوند او را به محمد صلی الله علیه و سلم میداد به بهترین پیامبرش خداوند بهترین کتاب و بهترین راهنما را داده امام احمد بن حنبل رحمه الله از ایشون نقل شده که ایشون میگهد رأیت ربی میعت مره من ربم را یک سد بار ملاقات کردم در چه صورتی خدای تعالی را در خواب دیده در مراقبه دیده در بیداری دیده به هر حال میگه صد بار من ربم را دیدم هر بار از خدا میپرسیدم که خدایا میخوام خور به شما را حاصل کنم میخوام به شما نزدیک بشم رایحل چیه هر بار خداوند جواب میداد با قرآن میخوی به من نزدیک بشی؟ به وسیل قرآن میبر نزدیک شو پس ببینی اینجا خداوند به بهترین بنده اش رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میفرماید که ما این دشمنان شما را از بین ببریم یا نبریم در, در زمان حیات شما یا بعد از وفات شما او به ما بستگی دارد وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما چنگ زدن به قرآن است فستمسک اوحیه الیک وقتی که محکم چنگ زدی اینکه على صراط مستقیم در این هنگام شما بر صراط مستقیم هستید اما اینکه انها ایمان نمی اون به بدلیل مهر جباریت است شما قرآن را محکم بگیر و انه در ادام خدای عز شرف قرآن را و فضل قرآن را بیام این کتاب چه کتابی هست و انه لذکر لک و لقومکا این قرآن شرفی هست برای تو و برای تو چی هست شرف است لذکر لکا و لقومك یعنی باعث عزت باعث عزت و سوف تسالون اولا چرا برای قوم برای قریش شرف است قریش افتخار بکند خداوند آخرین کتاب اشاره کی تاقیا قیامت این کتاب به عنوان محور است به عنوان مستمسک مسلمانان است به زبان اونها نازل شده و بر مردی بزرگ مردی از اونها نازل شده این شرفی شرف کوچکی هست یعنی القرآن شرفا لکا و لقومکا من قریش از نزل بلغتهم و على رجل منهم چونکه به زبان اونها نازل شد و بر مردی از اونها نازل شد. پس تفسیر اولی لذکرون یا ای شرفون. و بعضی میگن که قرآن است یعنی پندس موعزه است. و مرادس قوم امت است. مرادس قوم امت است و اینه لذکر لکه همانا این قرآن موعزی هست پند و اندرزی هست برای تو ای رسول الله و لقومی که برای تمام امتت بهترین پند و اندرز قرآن است اما در پایان این آیه خدای عزواجل جمله میفرماید که تکان دهنده است اون جمله چیه؟ و سوف تسالون من قریب شما از حقوق قرآن سوال میشید از حقوق واجبه قرآن شما را سؤال میکنند بازخاص میکنند معنیش اینه که همونطور که شما در قبر سوال میشید که رب تو کی بوده؟ کی هست؟ نبی تو کی هست؟ و از کنم که دین تو چی هست؟ در بار قرآن هم میشه که این کتاب چقدر از این کتاب استقبال کردی چقدر این کتاب را تلاوت کردی چقدر این نعمت را پاس داشتی چقدر بهش عمل کردی چقدر تبلیغش کردی حقوق قرآن را در روز اول ارز کردم ایمان به قرآن تلاوت قرآن فهم قرآن تدبر قرآن و عمل به قرآن تبلیغ قرآن شش حق لذا از این حقوق دربار این حقوق شما مسال میشید. لذا باید شما قدردانی این قرآن باشید، عامل بی این قرآن باشید، مبلغ این قرآن باشید، شب و روز تالی این قرآن باشید. واسأل من أرسلنا من قبلك من الرسلنا خب از کردم که دلیل نقلی چار تا تو این سوره هست. ستا تفسیلی هست یکی اجمالی هست این همون دلیل اجمالی هست تا حال ما دلیل ابراهیم را خاندیم و بعد از اینکه که دلیل سیدنا ابراهیم را خاندیم روی سخن به قریش مکه آمد و اعتراضات قریش و جواب اون اعتراضات و شرف قرآن حال دلیل دوم که این دلیل اجمالی هست خداوند می در این رابطه در رابطه با مسئله توحید و در رابطه با عبادت غیر خدا بپرس من ارسلنا من قبل که آنهایی که ما فرستادیم قبل از شما من رسولنا از پیامبران من از اونها بپرسید اجعلنا من دون رحمان آیا ما قرار دادیم یعنی جایز کردیم جایز قرار دادیم بغیر از رحمان آلیه خدا یعنی که یعبدون پرستش بشند آیا در طول تاریخ ادیان در هیچ دینی مشروع شده که غیر از رحمان کسی را عبادت کنند شما بریم بپرسید دلیل نقلی از انبیاء گذاشته یعنی در دینی هیچ, در دین هیچ پیامبری نبوده که غیر از خدا دیگران هم عبادت بشند شما این عبادت غیر الله را از کجا وردید اجعلنا من دون الرحمن آید جایز قرار دادید خب وصل بپرس الان از اون انبیا کسی نیست که از اونا بپرسیم در زمان رسول الله نبود چطور بپرسیم بعضی میگن بپرس یعنی در دین اینها برید بررسی کنید مطالعه کنید تحقیق کنید بعضی این را گفتن تفسیرش اینه مرادش اینه و بعضی میگن نه منظور از این که بپرس برید از پیروان اونها بپرسید که در دین شما هست که غیر خدا هم کسی معبود بشه چنانچه تفسیر مدارک می فرمایت تفسیر اللہ منسفی لیس المراد بسؤال الرسل حقیقت السؤال مراد سؤال پیامبران حقیقت سؤال نیست ولیکنه مجاز عن النظر في ادیانهم این مجاز است از اینکه که در, در دین انها برون نگاه کن و الفحص عن مللهم بررسی کن دین انها را ملت انها را آین انها را هل جاعت عبادت الاوسان قط في ملت من ملن الانبیاء آیا عبادت بطهات در هیچ دینی از ادیان انبیاء تا نه. پس بر از انها بپرسید یعنی بررسی کنید و قول دوم اینه و وقال اکثر المفسرین معناه واسئل امم من ارسلنا من قبلکا و علماء دینهیم برو از پیروان اون انبیاء بپرس از علماء ادیان اونها که آیا در هیچ دین خدا دستور داده غیر از من بیایید شما پرستش بکنی دیگران را هیچ کسی چنین اقراری نخواهد خب این دلیل دوم بود نقلی اجمالی از انبیاء سابقین و لقد ارسلنا موسی بایاتنا این دلیل سوم هست اما این تفصیلی هست دلیل سوم چی هست تفصیلی هست این دلیل تفصیلی از موسی علیه الصلاه و السلام هست الله می فرماید ما موسی را بسوی فرعون و ملع فرعون فرستادی. اما خیلی رسالت موسی با رسالت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مشابهت دارد همون طور که موسی پیش فرعون مبعوث شد رسول الله هم پیش فرعون و فرائنه مبعوث شد همون طور که با موسی برخورد کردن با رسول الله برخورد کردن همان گونه که دشمنان موسی را خدا قلقل کند دشمنان رسول الله را هم قلقل کند. ولقد ارسال ناموسا به آیاتی نه، همان نامفرستادی موسا با آیاتمان. یعنی با موجزات، ایلا فرعون و ملأیی بسیف فرعون و درباریان فرعون. فقّال اَنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسا گفت همانا من رسول رب عالمیان هستم برای هدایت همه عالم مبعوث شدم فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم من حاضح حکون انذار فرعونیا زمانی که موسی آمد پیش آنان هم با آیات ما آمد اذا هم منها يضحكون در این هنگام آنها بجای ایمان منها به اون آیات مسخره می کردن می خندیدند به آیات الهی خندیدند اما هر آیه و هر موجزی که بعداً میآید آیت می نسبت به موجزی جلوتر بزرگتر بود و ما نریه من آیت الا هی اکبر من اختها ما نشان نمیدادیم به فرعونیان هیچ موجزه مگر اون موجزه اکبر من اختها بزرگتر بود از شبیه آن اون موجزه قبلی هم مثل هم مانند آیت سابقه بعضی میگویند که این کنایه هست بر اینکه واقع موجزه بعدی از موجزه قبلی بزرگتر بود مهمتر بود بعضی میگن نه همه معجزات بزرگ هستند اما این یک نوع مسئلی هست که وقتی که یه چیز را بخوایم عظمت و بزرگیش را بیان بکنیم میگیم که او از او بزرگتر بود مثلا شما مردان بزرگی را دیده باشید انسان های بزرگ مردی را شما دیده باشید بعد از یک عمر شما تعریف میکنید رأیت رجالان بعضهم افضل من بعض یا بعضهم اکبر من بعض مردانی رو دیدم که بعضی از بعضی بهتر بودن یکی از دیگری بزرگتر بود منش اینه که همه بزرگ بودند پس اینجا هم بعضی میگن منش اینه که همه معجزات چی بودن اکبر بودند اللهی اکبر و من اختها اما معجزات وقتی که بر موسی آمدند این موجزات سبب معاخزه و سبب عذاب فرعون و فرعونیا ها شدند و اخذناهم بالعذاب ما فرعونی ها را با عذاب معاخزه کردیم لعلهم یرجعون شاید آنان از کفر و شرک برگردند لذا ما اونها را می کردیم اونها چی میگفتن به موسیٰ لسلات و السلام؟ هر وقتی که یک معجزه یک آیه سبب موعظه و گرفت اونها میشد میگفت ای موسی از پروردگار بخواه که این عذاب را از ما بردارد ما ایمان میآوریم اون آیات چی بودند؟ شما در سوره اعراف میخوانید فرسلنا عليهم الطوفانا والجراده والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات بلاخره خداوند به وسیله قورباغه به وسیله خون به وسیله قمل و شپش به وسیله طوفان به وسیله ارزم کنم که ملخ اونها را عذاب داد هر بار هر بار یکی بر اونها مسلط می شد می پیش موسی می ای موسی از پروردگار بخواد از پروردگار بخواد که این را از ما دور بکند از ما دور بکند ما ایمان بیاریم اما خداوند وقتی که اون مصیبت را دور می کرد اون مشکل را برطرف میکرد دوباره عهد شکنی میکردن دوباره ایمان نمی آوردن ببینیم موساره گفتم گفتن و یا ایوها ساهر ای جادوگر ببین از یک طرف تو مصیبت گرفتار شده از یک طرف چطور میگه جادوگر توجیه هیچیه اینو چند تا توجیه ذکر کردن دو ایش را عرض میکنم بازی از علما میگن اونها به موسی نمیگفتن جادوگر اونها میگفتن موسی اے بزرگوار اے ای بزرگوار ای پیامبر خدا هر جی که میکردن به اما تو دلشون این بود که تو داری جادو میکنی چون که تو دلشون موسی را جادوگر میدانستان خداوند اینجا تعبیر دل اونها را ذکر کرده تعبیری آورده که این تعبیر تعبیری چی هست دلشون هست گویا اونها میگفته ای جادوگر در واقعی اونها خودشون نمیگفتن این یک قول هست قول دیگر که علامه الوسی این قول را ذکر کرده و اینه که امروز جادو بدنام شده مردم به حقیقت پی بردند و میدونن که جادوگران چی هستند آدمای خوبی نیستند در اون زمان نه اون زمان دار دار جادو بود هر کسی که جادوگر بود او بزرگترین عالم بود بزرگترین دانشمند بود جادو در اون زمان عیبی نبود افتخاری بود از افتخارات پس یا ایوه الساهر نوعی تعریف هست جادو گرد نوعی چی هست؟ تعریف یعنی اینقدر عالم هستی که علم جادو هم بلدی قال الجمهور و خطاب و جمهور میگویند این خطاب خطاب تحقیر نیست خطاب تعظیم است در واقع به موسی داشتن با این جمله اعتراض احترام احترام میکردند فقط كانوا یقولون للعالم الماهر الساحر آنها به یک عالم ماهر نمیگفتند ساحر گفتن پس یا ایها الساحر یعنی اے عالم بزرگ ادعوا لنا ربك از ربت برای ما بخواه به ما عهد عندك به اون اهد که پیش تو کرده اون عهدی که اگر ایمان بیاورند ما چکار میکنیم عذاب را از اون میکنیم اونها گفتن لا ان کشفت عنا الرزه لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل اگر این عذاب را از ما دور کردی ای موسی ما تو ایمان هم میاریم بنی اسرائیل را هم با تو میفرستیم ایمان هم میاریم و بنی اسرائیل را هم میفرستیم پس ادعوا لنا به بما عهد عندک بخوان رب را و از رب بخا به سبب عهد تعهدی پیمانی که با تو بسته با تو کرده که این را از سر ما بردارد اننا لمحتدون همانا ما بر هدایت میاییم یعنی در صورت دفع عذاب ما هدایت میشیم ما حرف را میپذیریم اما خداوند میفرماید فلما ما کشفنا عنهم العذاب زمانی که ما دور میکردیم از آنان عذاب را این مصیبت را از سرشان بر می داشتیم آنها عهد شکنی می کردن هم یا در این هنگام آنها عهد را می عهد را پاره می کردند یعنی خیانت می به اون عهد و پیمان خودشان و بعض استقبار فرعون فرعون چقدر متکبر بود هم فرعون متکبر بود هم احمق بود ببینید شباهت حماقت فرعون با مشرکین مکه بنده ارز کردم قوم رسول الله با قوم موسی خیلی شباهت داره یکی از شباهت هایش همین الان شما خواندید که اونها میگفتن چرا یکی از آدمای پولدار و سردار مکه و طائف پیامبر نشد از نظر اونها آدم با شخصیت کسی هست که پول و سرمایه داشته باشد فرعون هم همین داره میگه میگه که من شخصیتی هستم برای خودم من اینقدر پول دارم اینقدر سرمایه دارم این قدرت را دارم این پست را دارم پادشاهم موسی هیچی نداره من بهترم یا او همه این احمقهای دنیا فکر می که ملاک برتری با مادیات هست ببینی فرعون همین نمیگه. و گفت فرعونو فی قومیه فرعون, فرعون درمیان قومش گفت گال. یا قوم؟ ای قوم من آلیسالی ملک میسره. آیا ملک و پادشاهی مصر مال من نیست؟ این چیز دلیل اول استدلال بالجاه. جاه یعنی چی؟ حست مقام. استدلال میگرد که مقام من خیلی بلنده من پادشاهم من ملکم و هاده الانهار تجری من تحتی این نهرها رو نمی بینید که تجری من تحتی این نهرها از زیر سلطنت و حکومت من جاری هستند به چه معناست؟ یعنی خداوند مرا اعتقادی به خداون نداشت من دارای این همه قدرت هم این همه مادیات هم افلاتو بسیرون شما نمی بینید یعنی نمی بینید بگوید که افضل چی کسی هست منم یا موسی ام انا خیر من هذا الذي هو مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينٌ آیا من بهتر نیستم از این کسی که بین موسار توهین میکنه، شخصیت موسار خورد میکنه به گمان خودش. یکی اینکه توهین قومی میکنه تنقیس قومی. این افرادی که افرادی دیگر را از نظر قومی توهین میکنه میگه این از فلان قومه. این دعب دعب فراونی هست. هیچ انسانی به خاطر قوم خودش بی ارزش نمیتونه باشه. ارزش و بی ارزشی بر اساس ایمان است بر اساس عمل است بر اساس اخلاق است بر اساس تقوا است ان اکرمکم عند الله اتقاق انسان با شخصیت کسی که ایمان داره کسی که عمل خوبی داره کسی است که اخلاق خوب داره کسی که تقوای بالا داره و بی شخصیت کسی که نهار نداره ایمان نداره لذا از نگاه فرعون عقیده فرعون اینه که میگه من هاذا الذی هو مهین از این کسی که بی است چرا میگفت بی ارزش چون از بنی اسرائیل من قبطی هستم و او اسرائیلی است چون بنی اسرائیل را گشت بنی اسرائیل از اقوام پایین نبود بنی اسرائیل در اون زمان از بهترین ها بودند مگه بنی اسرائیل پیغمبرزاده ها نیستند نسل پیغمبر خوشا به حال کسی که او از نسل پیامبران باشه از زمان موسا تا زمان عیسید چهار هزار پیغمبر مبوض شد همه اجداد اینها بودند اینها پیغمبرزاده بودند اینها در زمان خودشون بهترین ها بودند و انی فضلتکم علی العالمین ای بنی اسرائیل بر همه جهانیان من خدا شما را برتری دادم اما اون برتری به خاطر این که اولاد پیغمبران بودن نه به خاطر اینکه که ایمان داشتن بقیه دنیا ایمان نداشت اینها ایمان داشتن بقیه دنیا خدا را نداشتن قبول اینها داشتن پس این زمان بنی اسرائیل به دلیل عمل کردهای سوء خودشان به دلیل اختلافات به دلیل در دنیا و مادیت بعد از یوسف علیه صلی اللہ وسلم بنی اسرائیل چون در مصر ماندند بنی اسرائیل شهروند در درجه دو سی قرار گرفتند و آخر بردهای قبتی ها قرار گرفتند فرعون اینها را به بردگی گرفته بود از اینها بدون مزد کار می گرفت به این خاطر میگه اینا بردهای ما هستند بیارزشند آیا من بهترم از این فردی که هو مهین و بیارزش است این تنقیس قومی هست ولا یکاد و, و این تنقیس شخصی هست توحین شخصی و نمیتونه خوب بیان کنه ببینید این زمان که موسیٰ علیه صلی اللہ علیه سخن میگفت فسیح سخن میگفت رسان صحبت میکرد اما یک زمان موسی لکنت زبان داشت اون لکنت زبانش هم میدونه به چه دلیل بود اون زمانی که ریش فرعون را گرفت تفلی بود ریش فرعون را کشید فرعون گفت حتما دشمن من همینه میخواست که او را از پای در آورد بیبی آسیه بنت مزاحم که همسر فرعون گفت نه این بچه چی میدونه فرعون گفت من امتحانش میکنم لذا جواهراتو آتشی روشن کرد آتش زغال آتش روشن جلوی موسی گذاشت موسی علی الصلاۃ و سلام جبرائیل دستش را به طرف آتش برد خدا می‌خواست سفارشش بکنه و زغالی گرفت آتش گرفت در دهان کرد که زبانش سوخت اونجا فران متوجه شد که نه این تشخیص نمیده لذا دست از سر موسی برداشت به اون دلیل لکنتی مانده بود البته اینها اینا داستان هایی هستند که بیشتر از روایت های بنی اسرائیل آمده لا نصدق و لا نکذب اما دلیل لکنت ها این لکنت زبان را کداش خداوند ازا و این لکنت زبان را دور کرده کردازو چون وقتی که خداوند به پیامبری مبعوث کرد موسی دعا کرد وحل العقدة من بار الها این بندشی و این گره که در زبان من هست اینو باز کن اینو دور کن و قولی تا این که قول من را سخن من را خوب بفهمند خداوند اینو دور کرد اما فرعون یاداوری میکنه اون زمان گذشته را ولا یکا بین خوب نمیتونه حرف بزنی من بهترم یا او و بعد ببین ملاک برتری چی چیزهای رو میگه این حماقت فلولا القی علیه اصورت من ذهب چرا بر او دستبندهای الانگوهای از طلا وجود ندارد. الانگوهای از طلا وجود ندار اون زمان پادشاهان و سرمایداران سرمایه های خودشون را پول های خودشون را به وسیله زیورالات نشون میدادن که من اینقدر دارم لذا اون زمان پادشاهان دستبند تلایی و الانگوی تلایی به دست میکردن؟ اینجاست که فرعون بر موسی ایراد میگیره فلولا القی علیه اسورت من ذهبن چرا بر او تلاهایی از الانگوهایی از تلا نیست دستبندهای از تلا نیست او جا معه الملاکه مقترينين یا چرا ملاکه صف بسته همراه با او نمی آیند؟ ببینید فرعون لشکری داشت که جلوی صف بسته بودند رجمی رفتند. اما موسی اگر ادعا می کند که لشکر خدا با او هست چرا هم لشکری خدا نمی آد؟ اون لشکر خدا نمیاد، اوم ملاکه صف نمی بندد، نمی تمام. ببینیم که واقعاً این لشکری دارد به این صورت فرعون قومش را فریب داد قوم هم به ظاهر نگاه کرد اون قوم هم قوم فرعون بود در زبان اردو میگن گن جیسا پیر ویسا مرید پیر هر طور بود مریدشون همون طور وقتی که پیشوای اونها فرعون بود مریدان هم مثل همون خیال میکردند. کردند هم همین طور فکر میکردند. کردند لذا فستخف قومهو قوم خودش را چیکار کرد؟ عرض کنم احمق کرد استخفاف یعنی اونها را سبک عقل قرار داد اونها را استخف عقولهم عقول اونها را سبک کرد یعنی فریبشون داد فاطاعوه اونها هم چیکارش کردند اطاعتش کردند التي اطاعت چرا از موسا اطاعت نکردند چرا از فرعون اطاعت کردند انهم کانو قوم فاسقین چون اینها از قبل قوم فاسق و قوم سرکشی بودند فسق یعنی خروج عن الحد عن طاعت الله معلوم میشه که عملکرد قبلی انسان خیلی تاثیر داره در هدایت انسان یا در گمراهی انسان از قبل چون اینها آدمای خوبی نبودند هدایت نصیبش نشد پیروی موسا نصیبش نشد پیروی فرعون شدند <تصفح> لذا الله عزوجل می فرماید ما چیکار کردیم ما چیکونه انتقام گرفتیم فلما آسفونا وقتی که ما را پی خشم آوردند ما را وقتی که ناراضی کردند انتقمنا منهم ما أذنها انتقام گرفتیم فاغرقناهم اجمعین ما همگیر غرق کردیم ان تفسیل انتقمنا هست. چطور انتقام گرفتیم فاغرقناهم اجمعین ما غرق کردیم فجعلناهم سلفا و للآخرين. الله می فرماید ما آنان را یعنی فرعان را و داستان فرعان را قرار دادیم سلفا سلف یعنی نمونه عبرت گذشته داستانی گذشته یه داستانی که دیگه گذشت اما داستان عبرتی هست هر وقت در هر جمع وقتی که چیزی به عنوان عبرت یاد میشه شه و قوم فرعان یاد میشه پس یک داستان گذشته ای که نمونه چی هست عبرت است هم سلف است و هم مثل است مثل است یعنی نمونه ای است برای برای انسان های بعدی خب این عرض به خدمت شما که دلیل نقلی سوم بود از موسی و از فرعون نتیجه این شد که موسی پیانبر بحق خدا بود اونهایی که موسی را مسخره کردن با موسی مبارزه کردند، اونها حلاک شدن نتیجه می گیریم که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که نبی مکرم الله هستن شما قریشی ها اگر مثل فرعونی ها تمسخر بکنید کفت کنید پشت بدهید یه روزی انجام شما هم همون خواهد بود چنانچه خدای عزوجل فرعون این امت را که ابو جهل باشه با ذلت در میدان بدر کشت و خارش کرد نه تنها ابو جهل در میدان بدر کشته شد در میدان بدر تمام کله ها کشته شدند تمام سرداران امیه، اتبه، شیبه همه یکی بعد از دیگری کشته شدند و لما ضرب ابن مریم مثلا اذا قوم ک منه يصدون دليل نقلی دیگری هست که بعدا اصل دليل میاید اما انجار ربطش تشخی خدمت شما بیان میکنم که ما در آیه گذاشته خانی من ارسالنا من قبل من رسولنا شما از پیشینیان بپرسید از رسول ما یعنی از پیروانی اونها بپرسید آیا غیر خدا کسی را به عنوان معبود انتخاب کردند معلوم میشه که در شریعت هیچ پیغمبری عبادت غیر الله جائز نبود اما میگفتند که چرا مگر در دین مسیح خود مسیح را عبادت نمی نه تنها مسیح را سه خدا را عبادت میکنند چطور شما میگید در ام در ادیان گذشته در انبیا گذشته عبادت غیر الله نبود عبادت مسیحی که بود خداوند میفرماید ولما ضرب ابن مریمه وقتی که بیان میشه مثال ابن مریم فرزند مریم عیسی ابن مریم چرا خداوند میفرماید ابن مریم هیچ پیغمبری را خداوند به نام پدرش ذکر نمی کند در قرآن نمیگه محمد ابن عبدالله میگه محمد رسول الله نمیگه ابراهیم ابن آزر میگه ابراهیم نمی میگه اسماعیل ابن ابراهیم نمیگه یوسف ابن یعقوب هیچ جا نگفتی موسی ابن عمران اسم پیامبران را ذکر میکنه به تنهایی یا با وصف رسالت چرا عیسی را با نام مادرش ذکر میکنه چون مسیحیان میگن عیسی ابن الله خداوند میخواد بگه اون غلطه عیسی ابن مریم به این خاطر در غالب جه عیسی ابن مریم میعهد ولما دور ابن مریم مثلا وقتی که ابن مریم به عنوان مثل زده میشه و مثلش گفته میشه اذا قوم کمنه یا صدون در این هنگام قوم تو کف میزنند، دست میزنند، شادی میکنند. که ببین نمونه ای از عبادت غیر خدا گیرمون آمد. اون نمونه چی هست؟ عیسی هست. پس ربطش از کردم که با همین آیه هست که وسال من ارسالنا من قبل کا من رسولنا اینجا هست که خوب که فرست پرستش میکرد این را خود جواب میده بعضی میگویند وقتی که آیه شریفه انکم و ما تعبودون من دون الله نازل شد چون مفهوم اون آیه این است انکم و ما تعبودون من دون الله حساب جهنم ای مشرکان شما و معبودان شما اخگرهای جهنمید وقتی که گفتن اونهایی که شما عبادت میکنید هم آتش جهنم اند زغال جهنم اند اخگر آد جهنم اند مس... که مشرکان خوشحال شدند چرا خوشحال شدند؟ گفتن که پس تکلیف ایسا چی میشه؟ شه؟ <تصفح> می که رسول الله ایثار به عنوان پیغمبری قبول دارد و مسلمانان به عیسی ایمان دارند هیچ وقت نمیگویند عیسی مثل معبودان تو جهنم است اون را وقتی که ناظر شد گفتم پس تکلیف عیسی چیه یکی از مشرکان به نام عبدالله ابن الزبعری ابن الزبعری گفت اگر این صحیح است که همه معبودان به جهنم روند پس عیسی و اوزیر را هم شامل میشه ایسا و اوزیر وقتی که میروند از این تمثیل خوشحال شدن مشرکین کف زدن گفتن ما پیروز شدیم. اینا تو مناظر شکست خوردن ایسا و اوزیر را هیچ وقتی نا قبول ندارند که به جهنم میروند اونا گفته هر جا که این دوتا باشن خدایان یعنی ما هم همون جا باشن ما قبول با داریم خداوند از زوجل فرمود نه. ان الذين <سؤال> سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون ان ايه نازل شود اون آیه خداوند قبلا برایشون بهشت را نوشته یعنی پیامبران ما اولئک عنها مبعدون اونها از جهنم فاصله دارن لا یسمعون حسیسه صدا زریف و آهسته جهنم را نمی شنوند چرا؟ چون چونکه اینا هیچوقت به عبادت خود مردم را دعوت ندادند مردم خودشون گمراه شدند پس ببینید اینها خوشحال بودند از همین که ابن مریم هم معبودی هست و عبادت میشه اما خداوند در ادامه دلیل نقلی از ابن مریم بیان میکنه میفرماید ببینید ابن مریم خودش چی گفت آیا گفت مردم من عبادت کنید هرگز نه ابن مریم گفت مردم ان الله هو ربی و ربکم فعبدو خداون رب من و رب شما از او را عبادت کنید این تبلیغ ابن مریم پس دلیل نقلی بعدن میاد از ابن مریم ولما ضرب ابن مریم مثلا وقتی که ابن مریم به عنوان مثال زاد میشه بیان میشه اذا قومك منه يصدون درون هنگام قوم از اون کف میزنند شادی میکنند وقالوا الهتنا خير امه آنها میگویند آیا معبودان ما بهتر هستن یا ابن مریم ما ضربوه لك الا جدلا ببین این سوال را چرا میکنند ما ضربه این مثال را نمیزنم برای شما مگر به منظور جدل هدفشون سوال نیست هدفشون جدل است فس است بل هم قوم خصمون بلکه اینها قومی هستند خصیمون یعنی اهل بحث و جدل هدف اینها مناظره و جدل است هدف اونها تحقیق تفحص نیست اینکه مسئله را بفهمن نیست اما خداوند توضیح میده ببینید ابن مریم کیه خدایان باطل شما کیند آیا ابن مریم دعوت داد ببینید دعوت ابن مریم را ان هو ان هو عبد انعمنا عليه نیست عیسی اون عیسی اون ابن مریم مگر بنده ای هست که ما بر اون بنده انعام کردیم و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل و ما اون بند را نمونه برای قدرت خودمون قرار دادیم یکی از نمونه های قدرت است برای بنی اسرائیل چطور نمونه قدرت است هر فرزندی به وسیله پدر و مادر متولد میشه اما این فرزند بدون پدر متولد شد این نمونه قدرت است نه و لو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الأرض يخلفون اینجا خداوند تخویف به می میفرماید اگر ما می‌خواستیم قرار من می منکم یعنی بدل اپون بجای شما ملائکه در زمین که یخلفون اونها پشت سر هم می آمدند پشت سر هم جانشین هم دیگر شدند الا ای حال شما که هستید روی زمین شما شرک میکنید ناس پاسی میکنید و انه لعلم للساعه الان حقیقت ابن مريم ابن مريم لعلم للساعه یعنی وسیله علم هست برای قیامت بعضی میگن علمه لعلم للساعه علامتی هز علامت های قیامت است وسیله علم هست چطور؟ به این صورت که مردم قیامت را قبول نداشتند چرا قبول نداشتند میگفتن چطور ممکن انسان مرده دوباره زنده بشه انسانی که استخوانش پوسیده شده دوباره زنده بشه خداوند میفرماید یکی از آثار قدرت من ابن مریم است ببینید ابن مریم چطور بدون پدر متولد میشه اون ذاتی که اینقدر قدیر است که بدون پدر زنده می کند پس اون بدون واسطه و اسباب هم را دوباره زنده می کند این یک تفسیر و بعضی میگن علم ساعت یعنی علامت قیامت علامت قیامت اینه که حضرت عیسی علیه سلاطه و سلام در نزدیک قیامت تشریف میآورند رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که علامت قیامت را بیان فرمودن خیلی از علائم را ذکر کردن علامت‌های های دور قیامت علامت میانی قیامت علامت های نزدیک قیامت از اون علامت های نزدیک قیامت یکی نزول عیسی هست که از آسمان نزول می کند تشریف میاره به زمین و با کفار و با اهل کفر می بعداً کفار شکست میده دجال را از بای میبره میکشد بعدن تا سالها حکومت میکنن میگن چهل سال حکومت میکنن و بعدن فوت میکنن بس عیسی علامتی هست برای چی برای قیامت و انه العلم للساعة فلا تمترن بها هرگز شک نکن در بار قیامت بها مرز زمیر چیه؟ قیامت و التبعونه و در توحید و در عقاید از من پیروی کن هذا سراط و مستقیم این راه راست را است هم توحید را قبول داشته باشی هم قیامت را و لا یسدن نکم الشیطان شما را شیطان از این را منحرف نکند ببینی شیطان همیشه وسوسه خودش را دارد هم در باره قیامت وسوسه کند انسان را شاید قیامت چطور ممکنه شاید نشه و هم در باره توحید انه لكم عدو مبين همان او شیطان دشمن آشکار شماست خب ما ستا دلیل نقلی در گذشته خواندیم علامه ما جاء عیسی بالبينات این دلیل چهارم نقلی هست از پیامبر الهی عیسی بن مریم ببینید همون دعوتی که محمد صلی الله علیه و وسلم کرده که یک خدا را عبادت کنید بغیر از خدا دیگران را عبادت نکنید ایسا هم سوی همون دعوت داد حال تفصیل دعوت ایسا ولما لما جاء عیسا بالبینات زمانی که ایسا همراه با بینات آمد همراه با موجزات آمد موجزات ایسا هم زیاد بودند قال قد جئتكم بالحکمه ای مردم من پیش شما آمدم همرا با حکمت آمدم تا عقائد شما را اصلاح بکنم ولی ابین لکم بعض الَّذِي تَخْتَلِفُونَ تا تاک بیان کنم برای شما بعضی از آنچه که شما اختلاف میکنید در آن یعنی اختلافاتی که در امور دینی دارید یا دنیاوی دارید دنیا داری. همرا اصلاح بکنم عیسی برای این آمده بود فاتقوا الله وأطيعون إن فتقوا الله وأطيعون هم توحيد هم رسالتين فتقوا الله أسقده بتصيد يعني الشرك دوري كريد تقوى الشرك دوري كردان إن مشه توحيد وأطيعون رسالت من إطاعتكن من إساء فتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فعبدوه خب حالا جواب این اشکال که چرا عیسی حسب قرار نمیگیرد معبودان ما حسب قرار میگیرن؟ اصل جوابش اینه ببینید دعوت عیسی را ببینید عقیده عیسی را تبلیغ عیسی را عیسی چی گفت ان الله هو ربی هو برای حصر است همان الله فقط او است رب من و رب شما یعنی عیسی علیه صلات و السلام هم دعوت همه انبیاء ردائی رب من و رب شما فقط الله از فعبدوه او را عبادت کنید فقط او را عبادت کنید هذا صراط مستقیم صراط مستقیم هم همینه ببینید صراط مستقیم که من و شما در سوره فاتحه روزانه از خداون می خواهیم اهدن صراط المستقیم چیه فقط عبادت خدا هم توحید فی العبادت خب الان سوال مطرح میشه وقتی که عیسی علیه صلات و السلام بسوی توحید و یک تاپرستی فرا چرا این همه اختلاف است؟ یکی میگه که عیسی فرزند خداست عیسی ابن الله وقالت النصار المسيح ابن الله یکی میگه نه خود خداست لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم خدا او مسيح ابن مريم خود خدا هم عيساست اونجا اسمش خدا است اینجا اسمش عیسی است یکی میگه نه عیسی اقنوم سوم هست جزء سوم از خدا سه جزء است یکی خدا یکی روح القدس یکی عیسی که اینها را میگن تسلیسی قال بسبه خدا هستند لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه خب عیسی اگر واقعا به توحید دعوت داده چرا این همه اختلاف تو دینش است الله میفرماید فاختلفت الاحزاب من بینهم احزاب بین خودشون اختلاف کردند یعنی این اختلافات را متبعین عیسی درست کردند بعدی که خودشون را پیروان عیسی می خودی خود عیسی چیزی چیزهایی نگفته لذا الله تعالی می فرماید ال للذين ظلموا من عذاب يوم اليم وایل هلاکت برای ظالمان برای مشرکان اهل کتاب اینهایی که شرک را ایجاد کردند اینهایی که شرک را ادامه دادند ویل چی هست من عذاب یا من علیم بیان ویل هست من من بیانی است ویل یعنی عذاب روز دردناک برای شون هست الله تعالی زمان اون عذاب را هم مشخص می فرماید هل ینظرون الا ساعت ان تأتیهم بغته. آنها منتظر نیستن مگر منتظر قیامت هستن که قیامت ناگهان بیاید ان تأتیهم باغته ناگهان بیاد و هم لا یشعرون در حالی که اصلا درک هم ندارن شعور هم ندارن فهم هم ندارند یهو میبینن قیامت آمد خدا نجات بده وقتی که اون قیامت بیاد الاخلا و یوم اذن بعضهم لبعضن عادوف دوستان در اون روز دشمن میشوند این نیست که کسی بگه که دوست من دست منو میگیره مشكلة من حل ميكون الله يفرمد الاخلاء ويوم اذن بعضهم لبعض عدو دوستان در انروز بعضيها دشمن بعضي ميشفن إلا المتقين أما متقيننا بجز متقين إنسانهاي موحد إنسانهاي أهل تقوى بخدا انها باهم ديگر شكار ميكونند باهم ديگر دوستان أما دوستان بقیه با هم دیگه دشمنند یا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين وَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَرٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَيِهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا قَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُمْ اللَّهُمَّ صَلِّعَ لَمُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ قَبْلَ كفار براي مشركين فويد للذين ظلموا ظلموا يعني أشركوا الله عز وجل برايهم ها وعيد بيان فرمود وعيد تشيء من عذاب يوم أليم وأن أذاب زماني فمشخص فرمود هل ينظرون إلا الساعة وقتی آن حضور روز, روز قیامت فرا برسد به عذاب خدا گرفتار بشوند خداوند از شوارق و وضعیت اون روز فرمود يومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان سمیمی دوستان جانی در اون روز با هم دشمن نيشان با هم دیگه مشکل پیدا میکنن الا المتقین مگر انسان های با خدا خدا ترس مؤمن، اونها دوستیشون برقرار می ماند وقتی که وصف المتقین آمد بحث متقین زد شد خدا تعالی اون بشارتی که در مقابل هم تخویف هست باید می فرماید و این بشارت مالک همین متقین هست اللہ می فرماید یا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون باید متقیان خطاب میشه گفته میشه ای بندگان من امروز خوفی بر شما نیست ولا انتم تحزنون و در باره آینده هم شما غمی خواهید داشت در باره حزن خدمت شما عذر کردم که خوزن یا نسبت به گذشته میشه یا نسبت به آینده میشه اگر نسبت به گذشته باشد هم معناش اینه که شما غمی ندارید که در دنیا باغ را از دست دادید غنا را از دست دادید گوسفند را از دست دادید مغازه از دست دادید چون اینجا چنان نعمت هست که اونا را فراموش و یا اینکه خوزن در آینده هست در آینده همینجا شمارا هیچ مشکلی نیست هیچ مشکلی مواجه نمیشه در دنیا اگر بسیاری از انسان ها به نعمتی میرسند برای آینده فکرمند فکرمندند پریشان میشوند کسی سلامتی دارد پریشان میشه که مریض نشم کسی ای دارد پریشان هست که یه ای وقتی این سرمایه را از دست ندهم و شکست نشون بعضی از انسان ها به پست میرسند به مقام میرسند به ریاست، به مدیریت، به ریاست جمهوری بعضی هم برای چهار سال آینده وقتی فکر کنن نگرانند میگویند که بعد از اون ما نیستیم خدا تعالیه دار باره آینده هم آنجا آنها اطمینان میده ولا انتم تحزنون دار باره آینده هم غمی ندارید غمی ندارید اندویی ندارید اما این متقین کیا هستند اوصاف متقین الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين متقین انهاری هستند که هم اعتقادشون خوب بود هم عملشون خوب بود الگین کانو الگین آمنوا بآیاتنا میدونید که سروکار ایمان با قلب هست با اعتقاد هست با باور هست یعنی آیات تکوینی و تشریعی ما ایمان داشتند آیات را باور داشتند این از نزار اعتقاد و یقین و کانو مسلمین عملا هم تسلیم بودند یعنی به همه آیات عمل می کردند نماز می روزه می گرفتند حج انجام می دند اسلام یعنی انقیاد ظاهری پس هم قلبا باور داشتند هم ظاهرا اطاعت و فرمان بینید اینا هم است پس تقوا فقط این نیست که انسان تو دلش یه چیزی داشته باشه ظاهر عمل نکنه یا ظاهرا عمل بکنه اما تو دل خبری نباشه بلکه هر دو با هم هماهنگ هم هم باشه به این متقیان اونجا چه گفته میشه ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تهدرون وارد بهش بشوید شما و همسرانتان تهدرون آنجا اکرام می شوید احترام می شوید بعضی تخبرون را به معنای صداهای زیبا تفسیر کرده یعنی تخبرون صداهای زیبای مستند شما می بینید و میدانید که در دنیا لذاتی که انسان ها حاصل میکنند چندین نوع لذات است بعضی لذات هستن ماکولات و مشروبات انسان چیزی میخوره می, می نوشه لذت حاصل می کنه بسیاری افراد لذات را با ارس کنم که باصره با دید دیاز از ذار می توانند می کنه لذت حاصل می کنه بسیاری از لذات هستن که انسان گوش می کنه اونها را هر کسی لذت گوشش در چیزی هست که اعتقاد دارد. گوش می کند لذت میبرد. پس بعضی تفسیر کردن تحبرون مربوط به اون لذاتی هست که به گوش اعتقاد دارن صداهای زیبایی صداهای خوبی صداهای عجیبی می هر صدایی که اهل جنت اونجا دوست دارند. اما اصل مفسران یعنی توحبارون به معنای اکرام هست، به معنای اعزاز هست. شما و همسرات نیتان اکرام میشنید و بعضی گفته توحبارون یعنی شادمانی میکنید. خوشحالید. یطاف علیهم بصحاف من ذهب بر نهم میگردانند. صحاف سینیها یا دیسهاي که من زهابن، اون ظروف و اون دیسها استلاح و اکوابن و همچنين جامهاي فراز مشروبات و این لذت لذت چي خوردنوش است. و فيها ما تشتهيي الانفس و تلذذ أعين و در اون بهیش همه‌ی لطها، همه‌ی لذتها، آنچه که ها اشتها کنند، و آنچه که چشمها ازو لذت میبرد از کلی دام حمیت لذتها وجود داره. و انتم فيها خالدون شما در اون بهیش به صورت مداوم میمانید برای همیشه ماندگار هستید و تال جنته الاتی اورتوها بما قمتم تعملون این جنت هست اون بهشتی هست که شما وارث ان قرار داده شدید به سبب که عمل کردید خدا تعالی دبین انسان یه چیزی را اون بشه دیگه موقتاً به دستش نیست اگر ودیعتاً و امانتاً به دستش باشه چند روزی هست اما وقتی مال خودش به عرص رسیده اون برای همیشه هست اما اسباب دخول جنت را خدای تعالی انجا فرمود که بمار کنتم تعملون این سبب سبب ظاهریه بهش است. که در حدیث شریف داری و در آیات هم ذکر شده که شما آن حضرت فرمود هیچ کسی, بح... کسی با عمل خودش وارد بهشت نمیشه مگر با فضل پروردگار پس عمل موجب نمیشه اصل موجب دخول بهشت فضل پروردگار هست وقتی فازن پروردگار چرا عمل بکنیم شما داشته باشید که اون از نظر اعتقاد هست یک چیزی است از نظر اعتقاد و یک چیزی است از نظر عمل مثلا از نظر اعتقاد ما اعتقاد به تقدیر داریم اما از نظر عمل ما عمل نمیگوریم به تقدیر فقط اعتقاد را داریم مثلا ما معتقدیم که هر اندازه که رزق و روزی برای ما خداوند مقدر کرده همون به ما میرست این عقیده ما مسلمانان سیاینی هر اندازه که رزق ما مقدر است همون به ما میرست بیشتر نمیرست کمتر هم نمیرست هر اندازه که خداوند عمر برای ما مقدر کرده همون اندازه عمر بیکنیم بیشتر نه کمتر هم نه خب این از نظر اعتقاد، اما از نظر اسباب هیچ کسی به تقدیر عمل نمی کند درست هم نیست که انسان دیگه برای رزق تلاش نکند اسباب ریسک را اختیار نکند بگه هر چی خدا گفته هر چی خدا مقدر کرده نه از نظر عمل باید انسان به اسباب متوسل بشه یا از نظر اسباب انسان باید جلوگیری از مرگ بکند مریض میشه دواء استفاده بکنه مشکلی برای به دنبال حل مشکل باشد پس از نظر ایمان از نظر اعتقاد ما به تقدیر اعتقاد داریم اما از نظر عمل به اسباب متوسط میشه همچی از نظر اعتقاد باید اعتقاد و باور داشت که دخول بهش بدون فضل پروردگار ممکن مس این در هم میگه فضلا من ربک رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام فرموده اما از نظر عمل باید انسان به اسباب متوسل بشه اسباب چی هستند عمل کردنه یعنی انسان باید گناه نکند نافرمانی نکند نماز بخانات بقیه طاعات و عبادات را چه در باب حقوق الله اصل چه حقوق الیاد عمل انجام بده بنابراین این سبب اما سبب ظاهری سبب حقیقی فضل پروردگار است لكم فيها فاكهه كثيره منها تاكلون برش شما که هم بهش میوه زیاد هست، میوه زیاد فراوان، این زیاد بودن میوه به اعتبار انواع یعنی انواع میوه به اعتبار کیفیت است، کمیت هم ولی اینجا بیشتر مراد انواع است. من ها همه را نمیتونی بخونیم، من تا به بعضی از اونها را میخورید، ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، ای تخوی فخری بعد از تبشید. همانا مجرمان در عذاب جهنم همیشه ماندگار لا يفتروا عنهم کاست نمیشه سس نمیشه زنها عذاب عذاب کر نمیشه سبک نمیشه و وهم فی مبلسون انها در جهنم نومیدن کلن در جهنم چی هستن؟ نومید هستن وما ظلمناهم ولیکن کانوهم الظالمین که در آمان بخمائی ما بر آنان ظلم نکرتیم اما آنان بودن که خود ظالم بودم. بر خود ظلم کردن با انتخاب و اختیار شرک و کفر و اعمال قبیحا ظلم را بر خود رواده شد چنان انها نومیل حسن که مالک و داروغی جهنم را صدا میزنن و نادو یا مالکو لیقضی علینا ربوک ندا می کنند ای مالک ای دار جهنم لیقدی علینا ربک یعنی برای بهشت امیدی ندارند برای نجات امیدی ندارند تغازه مرگ می کنند لیقدی ای بالموت فیصله مرگ بکرمایید بر ما ربت شما خواهش کن که مره ما مره بمیراند اما مالبت جواب میده. قال اینکم ماکثون شما اینجا ماندگارید یعنی نمی میرید و نه خارج میشید شود ماکثون امینه اینجا می ماند نه خروجی برای شما هست و نه مولی هست پس ببینید این تخویف است برای کسی که شرک می کند رای کفر اختیار می کند. بعد از تخویف و تبشیر حال روی سخن بسوية أهل المكة خدا واند تعالى أي مخاتبين أي أهل المكة لقد جئناكم بالحق ما حق ربرا شما عورتين إن قرآن حق لكي يزنام هاي قرآن نورة لكي حق نعم هاي زيادة دارة ولكن أكثركم للحق تاريهون أما أكثر شما حقرا نمي نصبت بحق كراهات داري اما انکارچی کران اعتقادی و کرات عملی هم به کرات اعتقادی بس. خب مشرکین در گمانهای خودشون در تخیلات خودشون تصمیمات داشتن خداوند میفرماید ام ابرم و امرن فانا مبریمون. آیا آنها به صورت قطع و تصمیم گرفتن برای شکست آن حضرت برای بی اثر کردن دعوت آن حضرت برای از کنم عدم موفقیت آن حضرت، فا مبرمون اما به صورت قط تصمیم گرفتی تصمیم چی حلاقشون نابود کردنشون عذابشون اونها با هم همه شور دارن همه جلسات خصوصی دارن مشوره خصوصی دارن ام يحسبون ان لا نسمع سرهم و نجواهم اي انهم پندارند ما ننس ندید سخنان مخفیانه شان را و نجواهم و جلسات مخفیانه شان را نجوا چند نفر با هم دیگه جلسه میگویند و به صورت خصوصی حرف میزنند سر همونه که دو نفر با هم دیگه سخن میگوین مخفیانه یعنی سخنان مخفیانه و جلسات مخدیانیشون رو ما نمیدانیم؟ بلا و رسولو نالده این مردگون چرا ندانیم؟ فرستاده های ما که فرشتگان هستند کاتبین هستند اونها پیش اونها میلیسند هر چی که میگویند هر تصمیم میشه پشت اون درهای بسته در اون خانه های تنها چه تصمیم برای ترور است، چه تصمیم برای تزلیل هست هر نوع تصمیم اونها ملویسن که نا چه کار میکنند قل انکان لرحمن ولد بعد از تخویف و تبشیر و این وعیدی که برای اهل مکه بیان شد برمیگردیم به موضوع اصلی سوره ما در آغاز سوره داشتیم و جعلو لله من عباده جوزه برای خدا تعالی از بندگانش جز انتخاب کردند یعنی بندگان را فرزند خدا اولاد خدا نامیدن دختران خدا نامیدن خدا من می فرماید ای پیام بر بیانان بگو على سبیل الفرز هست بالفرز انکانه لرحمن ولد، اگر برای رحمان فرزند بود فانا اول لعابدین منظور از فرزن همون نائب هست. ولی عهد است. من اولین عبادت کننده بودم. یعنی اگر خدا فرزندی داشت و قطعا مثل خدا او لایق عبادت داشت. لایق سجده داشت. سزاوار سجده بود. اولین کسی که او را عبادت می کرد من بودم. من پیامبر بودم. و اون وقت اون فرزند در اداره آسمانها در اداره زمین در اداره ما بین اینها با خدا همکاری می کرد همه علی سبیل فرض هستند اما خدا تعالی پاکس. سبحانه پاکس از داشتن نائبی داشتن فرزندی اون پروردگاری که رب السماوات والارض و رب العرش هم آسمانها رب تنهای اداره می زمین را عش اون که رب آسمانها و رب زمین و رب عرش است او پاک است عمایستی از آنچه که اینها بیان میکنند، از آنچه که مردم توصیف میکنن در باره خدا بیان می در باره خدا خدا از اینها پاک است خب چینیم؟ کفر سنگینی <سنجيني> آیا این ها مستحق نیستن که سرشون رو بشگنی تو دهانشون بزنی بازم قدا تعالی توسیه می به تحمل فدرم بگذار یخوذون این ها وارد بشد یخوذون فی باطلیم در این سخنان باطلشون و یا العدون بازی کنن سرگر باشن تو دنیایشون حتی یلاقو یومهم اللذی عدون حتی که مواجه بیشن ملاقات بکنن با اون روزی که وعده داده بیش اون، با اون روز, روز بلس بزر بلس، و هوا اللّهی فی السّماء إلههم و فی الأرض إلههم و هو الحكيم العليم دلیل عقیلی هست بر اثبات توییت الله عز و جلّ میفرماید خداوند انزاری است که در آسمان هم اون مربود هست. ببینید کسانی را که به عنوان فرزندان خدا انتخاب کردند، بعضی ها از مخلوقات آسمانی انتخاب کردن مثلا از مشکین وشکین از انتخاب کردن بعضی ها از مخلوقات زمینی مثلا یهود و نصاره عیسی و عق در حالی که خداوند هم در آسمانها معبود هست هم در زمین معبود هست هر چی که مخلوق در آسمان است، هم اونها عبد قابل خداوندن هر چی که در زمین است هم عبد قابل خداوند است و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله الله هست که در آسمان ها معبود است در زمین هم معبود است و هو الحکیم العلیم اون ذات حکیم است همه کارهاش از روی حکمت است و تدبیر است العلیم هر چیز را داناست وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَا بَرْكَتَ اسْعَنْزَاتِ كِي بَرَيْهُ اُسْبَادِ شَاهِيَ آسمانها وَزَمِينَ وَمَا بَيْنِ آسمانها وَزَمِينَ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ببنید قبراً هم گفته شده که اون چیزی که در واقع برای یک فرد معبودیت را و استحقاق معبودیت را ایجاد می کند چند چیز هستند یک قدرت ما فوق الاسباب قدرت و تصرف آت یعنی کسی می تونه معبود ما قرار بگیرد که فوق الاسباب قدیل باشد تصرف داشته باشد در آسمان ها در زمین هر کاری از دستش براید هرچی بخواهد می کند تا اینکه که عابد وقتی که او را عبادت می کند و ازش چیزی می خواهد که نیازش را برابرده بکند این شرط اول هست. شرط دفم اینه که علمش هم العاده باشد ما فوق باشد یعنی از تمام ذرات آلم خبر داشته باشد از گوشه گوشه دنیا با خبر باشد که عابد هر جای افتاده تو هر جنگلی هست تو هر جزیره هست در خلوت در جلوت هر جاس وقتی او صدا می زند او که من صدا می زنم با بشه این دو چیز عالم به كل باشد و دیگه ان که قدرت داشته باشد سوم اینه که اگر قدرت نداره قدرت شفاعت و سفارش داشته باشد یعنی بتوند پیش خدا برای عابد خودش برای فریاد زننده خودش سفارش کند که خدای مشکلش را حل کنه. حل ببیند خدای تعالی همه این صفات را از مخلوقی نفر می کند نه مخلوق قدرت دارد قدرت مال پروردگار است هر جا بحث قدرت میاد، خداوند با سیغه حصر بیان میکنه. سیره حسر هر کسی با زبان عربی آشناس میدونه سیغی حسر یعنی که مخصوص خداس و غیر خدا کسی نداره دوم علم هم مال خداس عالم و خداست خداس خداوند هر جا بحث علم میارد هم با سیغی حسر ویمید. و یا و سوم نفی شفاعت میکنه از بندگانی شفاعت قری شفاعتی که با غلبه باشد خدا میفرماید اینها حتا فرسنگان مالک شفاعت نیستند چرا شفاعت میکنند سفارش میکنند برای اهل ایمان و اهل توحید الا من شهدا بالحق من شهدا بالحق یعنی شهدا بلا اله الا الله و نهم با اذن خدا با اجازه خدا بس بندگانی که شما اونها را فریاد می‌زنید اونها صفات اولویت را ندارند اونها شرایط سجده و عبادت را ندارند شما چطور اونها را عبادت می‌کنید زیرا الله می‌فرماید و تبارک الذی له ملک السماوات و له ملک السماوات بیان تصرفات و قدرت معزه پروردگار است و له حسره مده از غیر خدا چیزی شده نفی شده و تبارک الذی با هست تمام هس برکات بدست او هست برکات دهنده هست اون ذاتی که له ما فی السماوات والارض فقط و فقط برای اوست تمام پادشاهی آسمان ها و زمین مراد پادشاهی تصرفات و ما بینهما و آنچه که ما بین آسمان ها و زمین هست پس این تصرف و علم کامل چی قدرت کامل شد وعنده علم الساعة عنده تقديم الظرف چه ايجاد ميكند حصل فقط وفقط نزئوه اس علم قيامت ند بيشكسي ديگال وإليه ترجعون فقط وفقط بسوئوه برقردان دمي شبيد بيان الكمال علمي حصل خاصي علمي بالفعل حصل وبعض شفاعتهم كسي شفاء تقال الدرد مع زي الله لا ميدونه بك ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه مالك نيستن انهي كي يدعون ا يدعون هم انهرض مردم سلامي زمان غير از الله انها مالك الشفاعات نيستي مفعول لا يملك واس لا يملك الشفاعه مالك الشفاعات نيست صاحب اختیار شفاعت نیستن نمیتون سفارش بکنن اونهایی که مردون صدا شمیزن مردون که دا صدا میزنن یا فرشتگان را یا جنات را یا انسان ها را انسان های مختلف انبیاء اولیاء صلحاء غیرین اِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَق این استثناء هست مگر کسی که شهید بالحق بحق گواری بده یعنی کلمه توحید شهید بالحق چیه؟ يعني برأي القساني كي بحق دوايب دهند بالتوهيد دوايب دهند بلا إلهي من الله دوايب دهند يعني موحد باشد برأي منها چه ميكونن؟ شفاق ميكونن نيكان برأي منها وهم يعلمون اعتقادا هم ميدنن كي حق خدوان دست لا إله إلا الله معبود بغير خدوان نيست ولا ان من خلقهم ليقولن الله بعد ذلك قداما اثبات فرمودن کہ معبوديه والصفت اختصاص بخدا دارت وللمشركين بين اعمال لم خدا من دليل عقلي اكرافي ذكني كونت حاصل وخلاصين ان دليل نه که اینها خالقیت را قبول دارن که مال خداست فقط فقط از خدا کسی خالق نیست خالقیت را قبول دارن چرا؟ چرا قبول ندارند؟ عبادت را و لئن سألتهم من خلقهم؟ اگر از آنان بپرسی که چه کسی اونها را آفریده؟ و شیخ می آنها منظور از هم عابدین و معبودین هستند. هم خود شما هم عبودان شما کی آفریده؟ لَیَقُولُنَّ اللّٰه حتما حتما پاسخ میره قرار وقتی که آفریدگار شما هم خداوند است آفریدگار خدایان شما هم خداست فأن یوفقون بکدام صمت انها به انحراف کشیده نشود بگردانند میشنند و قیل له یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله درباره این واو اختلاف است و تفسیرهای مختلف است و درباره تی هؤلاء قوم لا يؤمنون شی جایگاهی در ایراب و در جمله داره. اختلاف اصلی و تفسیرش متفاوت. بعضی میگن که واف به معنای رب هست. یعنی بس اوقات رسول الله میگفت قیله مرجع زمین رسول الله هست. رسول الله میگفت که یا رب، اینها اولای قوم لا یم. چی میگفت میگفت میگو ف؟ این مقوله قیله هست. می گفت پروردگارا اینها ایمان نمی آبرد پیغمبر شکایت می کرد می گفت پروردگارا اینها ایمان نمی آبرد خداوند در واقع اون مقال رسول الله اون گفته رسول الله اینجا برای ما نقل فرموده شکایت پیغمبر را نقل فرموده لذلك قتادة قال قتادة هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه تفسير خازن قيله قوينده قول نبيك شماست كي شكايت ميكوند اس قومش بيش پروردگارش وقيله يعني گفته رسول الله بسا مي گفت يا رب انها علا قوم لا وقتي وقت كي اون انجور مي خدا بهش میگه فس فحمون بعد از تبلیغ شما در گذار باشد سب کن تعمل و بعضی میگن شیخ رحمه الله هم بر همین اعتقاد است که واو واو قسمیه هست واو واو قسمیه هست واو قسمیه قسمی قسمی وقتی که باشد بعض باز هم دو تا معنا بعضی گفتند وقیله یعنی سوگن به گفته پیغمبر کی یا رب میگه کدوم گفتهش اش یا رب قسم به این یا رب گفتن زیبای محمد صلی الله علیه وسلم جواب قسم چیه قسم به این گفته که انها اولی قوم الله اینها که ایمان نمیارن پس خداوند بی یارب گفتن پیامبر محبوبش سوگرد یاد کند که قوم او انها ای ایمان مقدرشون نیست ایمان نمیآورند پس خداوند از عدم ایمان اونها خبر داد مثل او آیومی که و اوحی الی نوح ان انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن نوح از قوم تو ایمان مگر آمان مگر ای ایمان آوردند و شیخ حسین علی رحمه الله میفهمن یا رب انها اولای قوم لا یؤمنون همه اینها چی هست؟ قسم است یعنی خدا من سوگند یاد میکند به این گفته پیغمبرش گفته پیغمبر چیه یا رب انها اولای قوم لا یؤمنون بار اله انها قومی هستن که ایمان نمی آورند. جواب قسم چیه جواب قسم اینه که خدا میفرماید ما آنها را عذاب میدم گویا عبارت اینه وقیلیه یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون لاعذبنهم قسم به این جمله محمد صلی الله علیه و سلام کی میگه ای رب اینها ایمان نمیار قسم به این جمله که من این قوم را عذاب میدم بله بس مثلین است که فدعا ربه ان هاولای قوم مجرمون بنابراین پیغمبر همینجا شکایت میکنه ای, ای رب این قوم ایمان نمی آورا خدا هم به همین سخنش این سخنش را شاهد میگیرد و به اون سوگند یاد میکند که من عذابشو میدهم اما تا اون زمان عذاب سابق کن فسف عنهم فاصفه عن هم ینی از اونها در گزر باش بعد از تبلیق تبلیغ بکن اضافه هر غلتی اونها میکنن در گزر باش یر کار داشت داشته و وقول سلام. فعلا به اونها سلام بگو مراد از سلام سلام متکت است. این سلام جمله دعایی نیست. فعلا در مقابل شما حرفی ندارم سلام فس مون ان قریب آنها. می دانند که خداوند دا از و جل را به چه بلای گرفتار می کنند به چه ازاری گرفتار شو خب این بود سوره مبارکی زخرو که در این سوره در آخر سوره گفته شد که شما اگر غیر خدا را صدا می زنید و از آنان حاجت می طلبید بی امید انکه ان های روز چکار بی برای شما شفاعت بی نه، نا و لا يملك اللذین یدون من دونه الشفاعت اینو مالک شفاعت لیست